گوینده حوتن مدیریت مالی، تغییر حوشمندانه بدهی بد به بدهی خوب راهنمای پدر پولدار برای پول دار شدن مقدمه. خیلی از مردم با برنامه تلویزیونی چه کسی می‌خواهد میلیونر شود آشنا هستند. این برنامه خیلی سری در آمریکا معروف شد و طولی نکشید بینندگان فراوانی را در سراسر جهان به خودش جذب کرد. تنها کاری که شرکت کنندگان باید انجام میدادند این بود که به یه سری از سوالات اطلاعات عمومی پاسخ بدن. با هر پاسخ درست پول بیشتری نصیب شرکت کنندگان میشد و جایزه بزرگ اون هم حد مبلغ یک میلیون دلار بود. طولی نکشید که سوال چه کسی میخواهد میلیونر شود در همه جا به تکیه کلام مردم بدل شده بود با اون همه علاقه مندی که به پول، پول شدن و جایزه های بزرگ گره وجود داره سوال بدیهیتر اینه که چه کسی نمیخواد میلیونر بشه البته امکان برنده شدن یک میلیون دلار در یک مسابقه تلویزیونی وجود داره همچنین بردن میلیون ها دلار در گره کشی امکان پذیره. و میلیونر شدن از طریق سرمایهگذاری در سهام شرکت هایی که برای اولین بار عرضه میشن غیرممکن نیست در این صورت با ثروتی که به دست میارید دیگه تا آخر عمر نیازی به کار کردن نخواهید داشت در واقع امروزه از هر زمان دیگری در تاریخ راههای بیشتری برای پول دار شدن وجود داره شاید به همین دلیله که در سراسر سر دنیا چنین شوریدگی و هیجانی درباره پول دار شدن و اون هم هرچه پدیدار شده یادم در مصاحبه ای که درباره یکی از کتابهام به نام پدر پولدار پدر بی پول داشتم ازم سوال چرا واقعیت رو به ما نمیگید؟ آیا شما کتاب و به این دلیل ننوشتید که از این علاقمندی مندی مفرت به سری پول دار شدن که تمام کشور رو فرا گرفته نهایت استفاده را ببرید؟ این سوال واقعا منو شگفت زده کرد و زبانم قاصر از پاسخ دادن بود در نهایت جواب دادم؟ شما میدونید که من هیچگاه چنین دیدگاهی نسبت به این موضوع نداشتم و میتونم درک کنم که چرا فکر میکنید من اون کتابو فقط به این دلیل نوشتم کاش میتونستم بگم من اونقدر زرنگم که کتابمو درست در این لحظه از تاریخ برشته تحریج در درآوردم ولی متاسفانه اینطور نیست من این کتابو به این دلیل نوشتم که روایت درسای پولدار و که از دو پدرم آموخته بودم برای همه بازگو کنم بعد از کمی مکس ادامه دادم در واقع پیام کتاب من دقیقا مخالف این مسابقات تلویزیونی و قرعه این روزا خیلی از مردم دیوانوار مشتاق سری پولدار شدن هستند در حالی که کتاب من درباره پولدار شدن و نه سری پولدار شدن خانم مجری با نیشخندی حاکی از تردید سری تکون داد و گفت خب اگر شما ترفدار این جنون سری پولدار شدن نیستید پس چه پیشنهادی دارید آرام آرام پولدار شدن طعنو و کنایه اون رو احساس می‌کردم و این منو زیر سوال برد. من باید در مقابل میلیون‌ها بیننده هر طور شده خونسردی خودم و حفظ میکردم. بنابراین در پاسخ به اظهار نظر نیشدار اون به زور خندهای کردم و گفتم کتاب من نه در باره استری پول دار شدن و نه آرام آرام پول دار شدنه. بعد با لبخند منتظر سوال بعدیش موندم. از اون سکوت احساس ناراحتی میکردم. ولی تا حد ممکن موضع خودم با آرامش حفظ میکردم و منتظر حرکت بعدیش بودم اون لبخندی زد و پرسید پس کتاب شما درباره چیه؟ من با تبسم در پاسخ گفتم کتاب من درباره هزینه پول دار شدنه خانم مجری پرسید: هزینه منظور شما از هزینه چیه وقتی که اون داشت این سوال می پرسید تهیه کننده بهش اشاره کرد که وقت برنامه رو به اتمامه در این هنگام مجری از من خواست پاسخ رو هر چه سریعتر بدم و من با گفتن این جمله مصاحبه رو به پایان رسوندم اکثر مردم مایلن پولدار بشن ولی اشکال کار اینه که فقط تعداد کمی از اونا تمایل به پرداخت هزینه اون دارن مصاحبه تلویزیونی به اتمام رسید و خانم مجری از من تشکر کرد و آخرین آگهی های بازرگانی نیز پخش شد ولی من نتونستم منظورم راجع به اینکه عملاً هزینه پول دار شدن چیه بیان کنم شما پاسخ این سوالو در این کتاب صوتی خواهید یافت چه کسی این هزینه را می‌پردازد مطالعه که توسط دولت درباره افراد از سن 20 سالگی تا 65 سالگی انجام شده نشون میده که وقتی اونا به سن 65 سالگی رسیدند، یک درصد ثروتمند بودند چهار درصد از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند پنج درصد هنوز هم کار میکردند به دلیل آنکه مجبور بودند پنج و چهار درصد با حمایت خانواده یا دولت زندگی میکردند سی و شش درصد فوت کرده بودند به علاوه 35 درصد از یک درصد ثروتمند و همچنین درصد اندکی از 4 درصد از افراد با وضعیت مالی خوب ثروت خودشون رو از طریق ارث به دست آورده بودند. اما این سوال هنوزم باقیه. 5 درصد سطح بالای افراد ثروتمند چه کاری کرده بودند که سایر افراد اونو انجام نداده بودند؟ این 5 درصد چه هزینه ای رو پرداخت کرده بودند که سایرین اون رو نپرداخته بودند؟ آیا داشتن خانه بزرگ به معنای ثروتمند بودن شماست وقتی جوون بودم من و پدر پول دارم با اتومبیل از مقابل خونه یکی از هم, هم که در محله عیون نشین قرار داشت رد شدیم. من از پدر پول دارم پرسیدم که آیا پدر همکلاسیم ثروتمنده؟ پدر پول دارم با خنده جواب داد؟ یه شغل پردرآمد خانه‌ی بزرگ اتومبیل قشنگ و تعطیلات پرهزینه به معنای ثروتمند بودن نیست در حقیقت اینا میتونن دقیقا به معنای عکس اون باشن. سبک زندگی اسرافامیز به معنای باهوش بودن یا دارای تحصیلات عالیه بودن نیست، بلکه دقیقاً برعکس اونه. ما اکثران اونقدر زیرک هستیم که بتونیم منظور پدر پولدار رو از این جمله ده کنیم. با این وجود به نظر من یکی از دلایلی که بسیاری از افراد اینچنین چنین وفادارانه در قرقشیا شرکت می‌کنند، اونه که اونا نیز مایلن خونهی بزرگ و زیبا اتومبیل های گرون قیمت و تمامی وسایل سرگرمی دیگه که میتونن اونها رو با پول خریداری کنند در اختیار داشته باشند. با وجود اینکه امکان برنده شدن در قرعه کشی و به دست آوردن میلیون دلار وجود داره، اما در واقعیت شانس برنده شدن خیلی کمه. همونطور که داشتن خونه بزرگ لزوما به معنای ثروتمند بودن نیست، وقت گذرانی به بطاللت و تماشای مسابقات تلویزیونی یا شرکت در قرعه هم هزینه نیست که اکثریت یک درصد ثروتمند برای پول دار شدن پرداختن راه های خیلی متفاوتی برای پول دار شدن وجود داره برنده شدن در قرره یا برنده شدن در یک مسابقه تلویزیونی تنها دونمون از اونا هستند با خصات، کلاهبرداری یا حتی از طریق ازدواج با شخص ثروتمند هم میتوان پولدار پول از حالا بدونید که هر روش کسب ثروت فراوون ای داره و این هزینه همیشه با پول سنجیده نمیشه. هزینه تماشای مسابقات تلویزیونی یا شرکت در قرعه اینه که خیلی عظیمی هرگز ثروتمند نمیشن و هزینه بسیار گذاف برای پرداخت کردنه. راههای بهتریم برای پول دار شدن وجود داره اما اکثر مردم تمایل به پرداخت حزینه اونا ندارن. در واقع راههایی برای پولدار شدن وجود داره که در اونها اونقدر شانس موفقیت زیاده که تقریبا پولدار شدن شخص رو ضمانت میکنه. ولی بازم مشکل اینه که بیشتر مردم مایل به پرداخت هزینه های اون نیستند و به همین دلیلی که طبقه پجروهش مذکور در ثروتمندترین کشور دنیا در واقع تنها یک درصد مردم پولدار میشن مردم میخوان پولدار بشن اما مایل به پرداخت هزینه اون نیستند پس هزینه اینکه بگم دلم می‌خواد هیکل یه ورزشکار در سطح جهانی رو داشته باشم. چیه؟ اکثرا به من خواهند گفت: کاتونیاتو بپوش، روزی پنج مایل بادو، روزی سه ساعت به سالن بدنسازی برو و دیگه میلاتو پر از پیتزا نکن. منظور من از هزینه همین چیزاست. و من احتمالاً در پاسخ خواهم گفت: آیا راه دیگه‌ای برای داشتن چنین هیکلی وجود داره؟ میلیون‌ها نفر دوست دارن هیکل عالی داشته باشن، ولی تعداد کمی مایل به پرداخت هزینه اون هستند. و به همین علتی که فریب های دروغین که با هدف چاپیدن مردم وعده میدن، هرچقدر چقدر می‌خواد بخورید و لاغر شوید فقط کافیه که قرص کوچک جادویی را مصرف کنید یا اینکه بدون ورزش یا رژیم غذایی شبیه یک مدل زیبا شوید فرق نمیکنه ما به عنوان انسان در پی پول، هیکلی زیبا، روابط فوق‌العاده، خوشبختی و یا هر چیز دیگری باشیم صنعت تبلیغات آمریکا یک سلسله تبلیغاتی رو راهاندازی میکنه که در اون شیوهی سریع و آسون برای هر چیزی که می‌خواید وعده داده میشه. با این وجود بیشتر محصولاتی که توی ها تبلیغ میشن فایده‌ای نداره و افرادی که اونا رو خریداری میکنن خودشون مایل به سخت کشی یا پرداخت هزینه واقعی نیستن من اغلب اشاره می میکنم به یک دوره آموزشی گذاری در املاک که به مبلغ شهری اون 385 دلار بود. و من چندین سال پیش با دیدن یک آگهی بلند تلویزیونی برای شرکت در اون اقدام کردم. یادم یاد در منزل پای تلویزیون نشسته بودم و مرتبا کانال عوض می کردم که به اون آگهی تلویزیونی برخوردم. اون آگهی افراد و تققیب می کرد تا در یک سمینار شبانه رایگان در محل هتل هیلتون در نزدیکی آپارتمانی که توش زندگی می کردم شرکت کنن. منم برای رزرو جا و شرکت توی اون سمینار رایگان به اونا تلفن کردم. بعدم برای شرکت در سمینار آخر هفته با پرداخت 385 دلار ثبت نام کردم. اون موقع هنوز توی نیروی دریایی خدمت میکردم. برای همین یکی از همکارام که خلبان نیروی دریایی بود و دعوت کردم با من به اون سمینار آخر هفته بیاد. اون از سمینار خوشش نیومد و گفت که این یک کلاهبرداری تمام و کمال و وقت تلف کردن بوده و از اونا درخواست کرد که پولشو پس بدم. وقتی به پایگاه هوایی برگشتیم، اون به من گفت من میدونستم که این یه کلاهبرداریه و من نباید به حرف تو گوش میکردم ولی تجربه من کاملا متفاوت بود. بعد از اتمام سمینار کتاب ها و نوارهای اونو مطالعه کردم و گوش کردم و با استفاده از اطلاعاتی که از اون سمینار کسب کرده بودم میلیون ها دلار به دست آوردم. چند سال بعد یکی از دوستانم به من گفت مشکل اون دوست تو این بود که بیش از اندازه باهوش بود و اون سمینار چیزی برای یاد دادن به اون نداشت ولی تو اونقدر کند ذهن بودی که حرفای سخنران اون سمینار رو باور کردی و رفتی و به هر اون چه که به یاد داده بودن عمل کردی. امروزم من به همه توصیه میکنم برای آموختن اصول اولیه خرید املاک، راهاندازی کسب و کار، سرمایه گذاری در سهام ها یا هر چیز ای در این گونه سمینارها شرکت کنن. من اغلب از هزار میشنوم اگر این سمینار آموزشی ای نداشته باشه چیکار کنیم؟ اگر کلاهبرداری باشه چی؟ اگه چیزی یاد نگیریم چی؟ علاوه بر اینا من دلم نمیخواد توالت تعمیر کنم یا نصف شب مستجر را به من تلفن کنن. وقتی من همچین نظراتی رو میشنوم معمولا پاسخ من اینجوریه. پس بهترین کار اینه که توی سمینار شرکت نکنید. این سمینار قطعاً یک کلاهبرداریه. تجربه من میگه خیلی ها در پی پاسخهایی هستن که زندگی اونا رو به گونه‌ای بهتر کنه. ولی مشکل در اینه که وقتی اونا پاسخ رو پیدا می‌کنن از اون خوششون نمیاد. مثلا من از این پاسخ خوشم نمیاد اینقدر شکم خودتو تو از پیتزا پر نکن و برو سه ساعت در روز با وزنی سنگین بدنسازی سازی کار کن. به عبارت دیگه تا وقتی که من از پاسخ دریافتی خوشم نیاد به طور جدی به فکری پرورش اندام و رسیدن به بههییکل یک ورزشکار درجه یک نخواهم بود. دلیل عدم کامیابی اکثر مردم برای پول دار شدن اینه که اونا از پاسخ هایی که دریافت میکنن خوششون نمیاد و به نظر من این موضوع چیزی فراتر از پاسخی که اونا دوست ندارن و اون هزینهی که همراه اون پاسخ وجود داره و شخص واقعا اونو دوست نداره. همونطور که پدر پولدار میگفت اکثر مردم دلشون میخواد پولدار بشن ولی مایل نیستن هزینه اونو پرداخت کنن. من توی این کتاب صوتی به بحث راجع به هزینه پولدار شدن بدون خصسااست، شیادی یا نیاز به ازدواج با فرد پولدار خواهم پرداخت ولی بدونید که هزینه اون باید پرداخت بشه همونطور که پدر پولدارم اغلب به من گوش زد می کرد، هزینه هر چیزی همیشه با پول اندازگیری نمیشه. من توی این کتاب صوتی نه تنها پاسخها بلکه هزینه ای رو که رو به شما میگم. اگر از پاسخ من یا پاسخ پدر پول دارم خوشتون نمیاد، به یاد داشته باشید که راه های دیگه هم برای پول دار شدن وجود داره و همیشه یک ککششی جدید یا مسابقه ی تلویزیونی دیگه ای وجود داره که توی اون این سوال پرسیده میشه. چه کسی میخواد میلیونر بشه؟ اول بهای های خصاست کردن چیست ؟ اکثر مردم میخواهند پول دار شوند ولی نمیخواهند هزینه آن را بپردازند. پدر پول دار توی کتاب های زیادی به ترویج ایده قناعت و زندگی با هزینه کمتر از درآمد پرداخته شده. خیلی از به اصطلاح کارشناسان درباره محاسن از بین بردن کارت های اعتباری پسانداز کردن، به حد اکثر رسانی مبلغ واریزی به صندوق بازنشستگی استفاده از اوتوموبیل های دست دوم زندگی در منزلی کوچکتر، استفاده از برگه های تخفیف خرید از حراجی ها خوردن در منزل نگهداری از لباس های کهنه بچه های بزرگتر و استفاده از اونا برای بچه های مسافرت‌ها رو ارزون تر تمام کردن و راهبردهای دیگه مطلب نوشتن و راجع به گفتند. اگرچه اینها برای بسیاری از مردم ایده های خوبی محسوب میشه و کمخرجی هم زمان و مکان خودشو داره ولی بیشتر مردم از این ایده خوششون نمیاد. اونا عاشق لذت بردن از چیزهای بهتری در زندگی هستند. خونه بزرگ، اتومبیل نو وسایل سرگرمی خوب و مسافرت های گرون قیمت برای اونها بسیار خوشایندتر و مطلوب از پس پول در یک بانکه. ما اکرا با حکم عاقل که کمخرجی رو توصیه میکردند موافق هستیم. ولی خیلی از ما از ته دل ترجیح میدیم که یک کارت اعتبار طلایی بدون محدودیت خرج کردن داشته باشیم. از اون کارتایی که توسط یک عموی پولداری که پولش از همه شیخهای نفتی عربی، بانک های خصوصی سوئیس و بیل گیتس مجموعا بیشتره خریداری شده باشه. ما میدونیم که میل شدید به خوشگذرونی و تفریح در زندگیه که باعث مشکلات مالی برای خیلی‌ها میشه. و همین مشکلات مالی ناشی از ام یال پولی رو وادار میکنه که بگن کارت اعتباریتو از بین ببر، کمتر از درآمدت خرج کن و اتومبیل دست دوم بخر. از طرف دیگه پدر پولدارم هیچ وقت به من نگفت کارتای اعتباریتو از بین ببر. اون هرگز نگفت کمتر از درآمدت خرج کن. اصلا اون چرا باید منو به کارهایی نصیحت میکرد که خودش شخصا اعتقادی به اونو نداشت؟ وقتی که موضوع کمخرجی مطرح میشد، اون میگفت تو میتونی با خصاصت پولدار بشی. ولی مشکل اینجاست که اگرچه پولدار پول دار هستی ولی هنوز هم خصیص محسوب میشی مزایقه میکنی، پول پسنداز می کنی و به دنبال ارزون تر تمام شدن چیزها هستی و همیشه در هر چیزی کم هزینه ترین گزینه را از بطری آب گرفته تا اتاق های هتل انتخاب می کنی. اون همچنین میگفت با خساست زندگی کردن و ثروتمند مردن با عقل من جور در نمیاد چرا کسی باید با خصاسات زندگی کنه و ثروتمند از دنیا بره؟ و بعد فرزندانش حاصل یک عمر پسنداز اونو بعد از مراسم خاک سپاری خرچ کنن پدر پولدار متوجه شده بود افرادی که تمام عمرشونو به ناخون خشکی و پسنداز کردن صرف می اغلب فرزندانی دارن که به محض فوت والدین مثل کفتارهای گرسنه رفتار می کنن. اونا به جای لذت بردن از میراث به جای مانده از والدین خود اغلب سر پول به جون هم می افتن. و تولی نمی‌کشه که بعد از چنگ انداختن به هر اون چیزی که سهم منصفانه خودشون مینامن تمام اونو به باد میدن پدر پولدار به جای اینکه به من بگه ناخون خوشکی کنم اغلب میگفت اگر دلت چیزی رو میخواد قبل از هر کاری ببین چه حزینه ای داره و بعد خزینه اونو بپرداز و بعد در ادامه میگفت ولی همیشه به یاد داشته باش که هر چیزی بهایی داره و بهای پولدار شدن از طریق ناخون خوشکی و حساسیت اینه که همچنان ناخون و خسیس میمونی راه‌های مختلفی که می‌توانید پولدار شوید. میتونید به خاطر پول کسی باش ازدواج کنید و از این طریق پولدار بشید. من یه همکلاسی در شهری نیویورک داشتم که اغلب میگفت ازدواج با یک دختر پولدار به آسونی ازدواج با یک دختر فقیره. وقتی فارغ تحصیل شد همونطور که گفته بود با یک خانواده بسیار پولدار وصلت کرد. من شخصا فکر می کنم که اون با این کار نشون داد آدم ناخوشایندی بوده. اما به هر حال این روش اون برای پولدار شدن بود. با کلاهبرداری هم میشه پولدار شد ولی البته همه ما بهای این تصمیم و میدونیم. زمانی که من بچه بودم با خودم فکر میکردم یک کلاهبردار با نقاب میاد و از بانک ها سرقت میکنه. اما امروز میدونم که کلاهبردار های زیادی با کت و شلوار آبی، پیراهن سفید و کراوات قرمز هستند و اغلب از اعضای محترم جامعه خودشون محسوب میشن. دیگرانی هم هستند که در جوامع غربی با شرط بندی در کازینوها یا مسابقات اسب دوانی، شرکت در بخت آزمایی ها یا با سرمایهگذاری کور در بورس سهام پولدار دار میشن. در زمان اوج راهندازی سایت های اینترنتی خیلی ها رو میشناختم که فقط با شنیدن اینکه من دارم یک شرکت اینترنتی راهندازی میکنم حاضر به کشیدن چک بودند. شما میتونید با گلدوری پولدار بشید و همه ما میدونیم سرنوشت یک گلدور چیه. دست آخر سر اکلی یک گلوره قویتر پیدا میشه. یا اینکه اون می میفهمه فقط کسایی که از تو سری خوردن لذت میبرن حاضر به انجام کار با اون هستن همونطور که قبلا شرح داده شد میتونید با ناخون خوشگی کردن پولدار بشید ولی در همه جای دنیا از آدمهای پولدار ناخون خشک یا افرادی مثل شخصیت اسکروچ در داستان کلاسیک سرود کریسمس نوشته چارلز دیکنز متنفر هستند. اما اکثران افرادی رو دیدیم که همیشه تخفیف بیشتری میخوان درباره صورت حساب خودشون غر میزنن یا حتی بدتر از اون به بحانه های بیهوده از پرداخت صورت حساب خودشون امتنا می کنن یکی از دوستای من که مغازه لباس فروشی داره اغلب از دست مشتریانی که لباس میخرن و اونا رو در یک مهمونی می پوشن و چند روز بعد اون رو پس میدن و پول خودشونو مطالبه می کنن شاکیه و البته کسایی هستن های کهنه دارن یک لباس رو به مدت طولانی می پوشن کفشای ارزون قیمت می و فقیر به نظر میرسن ولی میلیون ها دلار پول تو حساب بانکیشون وجود داره با وجود این که این گونه افراد با خصاصت و ناخونخشکی تونستن پول دار بشن ولی این رفتار ای به مراتب فراتر از پول اونها در داره. من شخصا گاهی یوقات برای ناخونخشک بودن با خودم کلنجار میرم ولی بعد متوجه میشم که وقتی دست و بازی میکنم مردم بیشتر لبخند میزنند یا بیشتر از من خوششون میاد مثلا وقتی در قبال خدمات خوب مبلغ اضافی به عنوان انعام میدم، نتیجه این عمل از طرق دیگه به خودم برمیگرده. به عبارت دیگه، مردم افراد دست و دلباز رو بیشتر از آدمای ناخون خوشگو و دوست دارن. آیا هر کسی میتواند پولدار باشد؟ من و پدر پولدار بازم درباره هزینه پولدار بودن با هم صحبت کردیم. اون به من میگفت این هزینه برای افراد مختلف فرق میکنه. من پرسیدم، منظورت از این که این هزینه برای افراد مختلف فرق میکنه چیه؟ اون جواب داد، من دوستانم فکر کنم که همه ما با محبتها و استعدادهای منحصر به فردی مثل صدای خوب، نقاشی، ورزش، نویسندگی، تربیت فرزند، سخنرانی، تدریس و غیره پا به این دنیا میگذاریم. اگرچه خداوند این استعدادها را به ما عطا میکنه، ولی هر کدام از ما مسئول پرورش اون استعدادها هستیم، و پرورش اون استعدادهای خداداد اغلب همون خزینه‌ایه که ما برای پولدار شدن میپردازیم. پدر پولدار ادامه داد دنیا پر از آدمای باهوش و با استعداده که ما اونها رو به لحاظ مالی، حرفه‌ای یا در روابط شخصیشون موفق قلمداد نمی‌کنیم اگرچه همه ما استعدادها و نقاط قوتی داریم ولی هر کدوم از ما چالش‌های شخصی و نقاط ضعفی داریم و می‌باید بر اونها غالب بشیم هیچکس کامل نیست به همین دلیله که من میگم اون هزینه برای افراد مختلف فرق میکنه چون که هر کدوم از ما با چالش های متفاوتی روبرو هستیم و فقط آدم های تنبل فکر میکنن که زندگی باید آسون باشه نمیدونم که آیا گفته پدر پولدار درباره افراد تنبل درسته یا نه ولی مسلما میدونم هر وقت درباره سختی ها و ناملایمات شاکی شدم اون گفتهی پدرم مفید واقع شده هر وقت به خودم میگم ای کاش آسونتر بودن متوجه میشم که دارم تنبل میشم بنابراین مدتی استراحت می کنم. روکرد خودم و رو بازنگری می کنم و از خودم در مورد هزینه بلند مدت داشتن چنین روی کردی سوئال می کنم. البته اینطور نیست که من در پی راه آسانتری برای انجام کارهام نیستم. بلکه حواسممو جمع می کنم تا هر وقت خواستم تنبری کنم، خصاصت به خرج بدم یا مثل یک بچه بیادم و لوس رفتار کنم، از خودم بپرسم که هزینه اون رفتار چقدره پول پاداش پرداخت هزینه است. همچنین پدر پولدار میگفت من مطمئن هستم که اگر از هر آدم پولدار معروف یا موفق بپرسی به تو میگن که اونا هم هر روز به طور مداوم با چالش های شخصی و ترس روبرو بوده و هستند به کسی قضاوی رایگان نمیدند چالش من این بود که در شروع کارم نه تحصیل کرده بودم و نه پول در اختیار داشتم وقتی پدرم فوت کرد خرج و مخارج خانواده‌ام هم بر دوش من افتاد من تنها 13 سال داشتم که با اون چالش روبرو شدم و حتی چالش های بزرگتری هم در راه بود با این وجود من هر طور بود هزینه ها رو پرداختم و در نهایت ثروت زیادی به دست آوردم وقتی به گذشته فکر میکنم میبینم که پول پاداش پرداخت اون هزینه بوده در طول سالیان گذشته پدر پولدار مراقب بود که من و برادرم مایک همیشه نسبت به هزینه هر چیزی آگاهی داشته باشیم. وقتی که پدر واقعیم که من اونا پدر بیپول نامم، به من توصیه کرد که یک کار با امنیت شغلی پیدا کنم، پاسخ پدر پولدار این بود که یادت باشه امنیت هم هزینه خودشو داره. وقتی ازش پرسیدم هزینه اون چیه، اون در پاسخ گفت: "بهای امنیت برای بیشتر مردم آزادی شخصیه. و بدون آزادی بسیاری از مردم به جای اینکه در زندگی در پی آرزوهای خود باشند عمر خودشون را صرف کار کردن برای پول می کنند. به نظر من زندگی کردن بدون رسیدن به آرزوهام بهای بسیار سنگینی که بخوام برای امنیت بپردازم. اون نظر خودش راجع به مالیات اینجوری ابراز میکنه. کسایی که با فدا کردن آزادی خود به دنبال امنیت هستند مالیات بیشتری پرداخت میکنند. به همین علتی که افراد دارای مشاقل ایمن و مطمئن نسبت به صاحبان کسب و کاری که اون مشاغل رو ایجاد میکنن مالیات بیشتری میپردازند من چند روزی رو راجع به اظهار نظر اون فکر می کردم، تا بتونم موضوع رو به مرور درک کنم دفعه بعدی که پدر پولدار رو دیدم ازش پرسیدم؟ آیا من حتما باید بین امنیت و آزادی یکی رو انتخاب کنم به عبارت دیگه آیا این یعنی اینکه میتونم فقط یکی از اون دوتا رو داشته باشم؟ پدر پولدار وقتی فهمید من چقدر درباره حرفهای اون فکر کردم؟ خندید و در حالی که هنوز زیر لب میخندید پاسخ داد، البته که نه، تو مجبور نیستی فقط یکی از اون دوتا رو انتخاب کنی، بلکه میتونی هر دو رو کنار هم داشته باشی. پرسیدم، منظور شما اینه که من میتونم امنیت و آزادی رو با هم داشته باشم؟ گفت، یقینا، من خودم هر دو رو دارم. بار دیگه پرسیدم، پس چرا گفتی که برای بیشتر مردم حزینه امنیت، آزادی شخصی اوناست؟ شما چه هر دو رو در اختیار دارید وقتی میگید بیشتر مردم فقط یکی از اون دو تا رو میتونن در اختیار داشته باشند. شما چه فرقی با سایرین دارید پدر پولدار پاسخ داد من همیشه بهت گفتم که هر چیزی هزینه ای داره بیشتر مردم باگلن که هزینه امنیت رو بپردازند ولی اونا تمایلی به پرداخت هزینه ای آزادی ندارن به همین خاطری که اکثر مردم یکی از اون دو تا انتخاب میکنن در این لحظه مایک وارد اتاق شد و چون فقط بخشی از گفتگوی ما رو شنیده بود پرسید چرا شما هم آزادی و هم امنیت و کنار هم دارید پدر پولدار جواب داد به دلیل اینکه من دو برابر هزینه رو پرداختم من به میل خودم هزینه امنیت و آزادی را هر دو با هم پرداخت کردم این مثل اینه که دو تا ماشین داشته باشی مثلا من به یک وانت نیاز دارم ولی یک اتومبیل اسپورت هم میخوام داشته باشم اگر من هر دو رو با هم بخوام پس باید هزینه هر دو رو بپردازم اکثر مردم فقط با پرداخت حزینه یکی از اونها و نه هر دو زندگی خودشونو میگذرونن. من گفتم بنابراین این امنیت یک حزینه داره و آزادی هم حزینه جداگانه‌ای داره و شما خزینه هر دو رو پرداختید. من حرف پدر پولدار رو به این علت تکرار کردم تا موضوع در ذهنم خوب جا بیفته. پدر پولدار در تایید حرفای من سری تکان داد و گفت همینطوره. ولی بذارید برای روشن شدن معنی پرداخت خزینه هر دو مطلبی رو اضافه کنم. میدونید که همه ما به هر حال هزینه ای رو پرداخت می کنیم. حتی اگر اون هزینه رو نپردازیم. بازم هزینه ای رو پرداخت می کنیم. در حالی که اخم کرده بودم و سر مته می دادم گفتم شما الان چی گفتید؟ حالا دیگه حرفای پدر پولدار گیج کننده به نظر میرسید. پدر پولدار در حالی که با اشاره دست ما رو آروم می کرد گفت بذارید موضوع رو توضیح بدم. یادتون هست که همین چند هفته پیش موقع مطالعه قوانین نیوتن در انجام تکالیف درس علوم به شما کمک کردم؟ من و مایک با تکان دادن سر حرفش رو کردیم آیا قانون سوم نیوتون رو یادتون میاد؟ برای هر عملی اکسل عملی مساوی و در جهت مخالف اون وجود داره ما بازم با حرکت سر حرفش رو تعیید کردیم مایک گفت یه جورای نحوه به پرواز در هواپیمای جت تو آسمون رو توضیح میده موتور جت هوای داغ به عقب میرونه و هواپیمای جت به سمت جلو حرکت میکنه پدر پولار گفت درسته. به دلیل اینکه قوانین نیوتن قوانین عمومی هستند بنابراین نه فقط در مورد موتورهای جت بلکه در مورد همه چیز صدق میکنه پدر پولدار نگاهی به هردوی ما انداخت تا ببینه که آیا ما خوب به حرفهای اون گوش میکنیم بعد برای اینکه مطمئن بشه ما حرفهای اونو متوجه میشیم بازم تکرار کرد همه چیز مایک در حالی که از شنیدن اون حرفهای تکراری کمی عصبی شده بود گفت خیلی خب همه چیز پدر پولدار که گمان میکرد ما واقعا منظور اونو درباره همه چیز متوجه نشدیم ادامه داد وقتی میگم همه چیز منظورم دقیقا همه چیزه اون بازم ادامه داد آیا درسایی که درباره صورت‌های مالی به شما یاد میدادم و به خاطر دارید یادتون میاد که براتون توضیح دادم اگر هزینه هست پس باید جای دیگه‌ای درآمدی وجود داشته باشه تازه داشتم منظور اون از همه چیز متوجه می‌شدم من متوجه شده بودم که قوانین عمومی نیوتن درباره صورتهای مالی هم صدق میکنه. من گفتم بنابراین برای هر دارایی می‌باید یک بدهی وجود داشته باشه بعد برای اینکه پدر پولدار بدون من دنبال روی طرز فکر اون هستم ادامه دادم یک قانون عمومی در مورد همه چیز صدق میکنه. مایک اضافه کرد و برای اینکه چیزی بالا بره چیز دیگه‌ای باید پایین بیاد و برای اینکه چیزی کهنه باشه چیز دیگه‌ای باید نو باشه پدر پولدار در حالی که لبخند می‌زد گفت کاملا صحیحه. مایک پرسید: این موضوع چطور در مورد امنیت و آزادی و تمایل شما به پرداخت هزینه دو برابر صدق میکنه؟ پدر پولدار پاسخ داد: سوال خوبیه. این موضوع از اهمیت زیادی برخورداره چون اگر دو مرتبه هزینه رو نپردازید به هیچ طریقی چیزی رو که میخواید به دست نخواهید آورد. به عبارت دیگه اگر دو بار هزینه را نپردازید حتی در قبال هزینه‌ای که در وهله اول پرداخت کردید چیزی دریافت نخواهید کرد من در پاسخ گفتم چی گفتید؟ اگه دوبار هزینه رو نپردازیم در قبال هزینه که کردیم چیزی دریافت نمیکنیم پدر پولدار حرف منو تایید کرد و اینجوری توضیح داد افرادی که فقط هزینه امنیت رو میپردازند ممکنه هیچ وقت واقعاً تعم امنیت مثل امنیت شغلی رو نچشند. اون جسورانه ادامه داد شخص ممکنه حس کاذبی از امنیت داشته باشه اما هیچگاه به معنی واقعی احساس امنیت نمیکنه من سوال کردم پس اگرچه پدرم فکر میکنه که داره یک کار ثابت و با امنیت شغلیه اما از ته دل هرگز احساس امنیت نمی‌کنه پدرپولدارم گفت همینطوره چون اون فقط هزینه عمل رو می‌پردازه ولی برای عکس عمل درونیش هزینه پرداخت نمیکنه اون هرچقدر سختتر برای امنیت تلاش و هزینه میکنه ناامنی بیشتری در درونش رشد میکنه مایک پرسید پس ناامنی باید عکس عمل اون باشه پدر پولار گفت: سوال خوبیه؟ نه، انواع دیگه از اکسل عمل ها ممکنه وجود داشته باشه. یک شخص میتونه اونقدر امنیت داشته باشه که عکس عمل اون دلزدگی و سپس بیقراری باشه. اینجور اشخاص دلشون میخواد کار متفاوتی انجام بدن ولی این کارو نمیکنن چون در این صورت امنیت خودشون از دست خواهند داد. بنابراین به همین دلیلی که میگم هر کدوم از ما چالش مخصوص خودمونو داریم و هر کدوم از ما منحصر به فرد هستیم ما منحصر به فرد هستیم چون عکس عمل ما نسبت به هر چیز با عکس عملهای دیگران متفاوته من اضافه کردم مثل بعضی ها که با دیدن مار وحشت میکنن و بعضی دیگه با دیدن مار خوشحال میشن پدر پولار گفت دقیقا همینطوره دلیل متفاوت بودن ما اینه که همه ای ما از ذهنیت های متفاوتی برخورداریم پرسیدم پس فایده این ورزش های فکری چیه پدر پولار گفت این آدم و وادار به فکر کردن میکنه من همیشه میخوام به یاد داشته باشی که هر چیزی خزینه‌ای داره و اون هزینه اغلب دو برابر اون چیزی که به نظر میرسه اگر فقط یک طرف معادله نیوتو رو بپردازی شاید فکر کنی تمام هزینه رو پرداختی ولی نمیتونی به چیزی که میخوایی برسی گفتم میشه چند مثال برام بزنی پدر پولدار گفت همونطور که قبلا گفتم همه ما منحصر به فرد هستیم و به همین دلیل فقط میتونم مثال های کلی برای شما بزنم ولی به عنوان یک قاعده کلی هیچ وقت فراموش نکن که هر وضعیتی دارای دو جنبه متفاوته مثلا کارآمدترین کارفرماها معمولا کار خودشون رو به عنوان یک کارمند شروع میکنن اونا از تجربیات قبلی خودشون در زمانی که کارمند بودند برای تدوین شیوه مدیریتی که بتونن کارمنداشون رو توانمند کنن سود میبرن پرسیدم پس کارفرماهای خوب صادق هستند و طوری با کارمندای خودشون رفتار میکنند که زمانی دوست داشن اینجوری باشون رفتار بشه. پدر پولدار جواب داد: دقیقا حالا بیاید نگاهی به یک نمونه غیر متعارف بندازیم. فکر میکنید برای یک کاراگاه خوب شدن چه چیزایی لازمه؟ من و مایک که فکر میکردیم حالا دیگه پدر پولدار داره در جهت عکس جاده رانندگی میکنه، از همدیگه پرسیدیم: کاراگاه خوب شدن؟ پدر پولدار ادامه داد: بله، یک کارگاه خوب. یک کارگاه در درجه اول باید صادق، با وجدان و بسیار درست کار باشه تا بشه اونو کارگاه خوب نامید. آیا درست نمیگم؟ مایک گفت: خدا کنه که همینطور باشه. پدر پولدار گفت: ولی یک کارگاه خوب باید بتونه دقیقا مثل یک کلاهبردار یا افراد بدسیرت، خلافکار و بیوجدان فکر کنه. بانون نیوتون همیشه بیاد داشته باشید. اگر آدم نتونه مثل یک کلاهبردار خوب فکر کنه، پس نمیتونه یک کارگاه خوب باشه. من و مایک سرمونه به نشونه تایید تکون دادیم. دست آخر داشتیم متوجه می شدیم که کل درس پدر پولدار درباره چه چیزی بوده. من پرسیدم، پس به همین خاطره که وقتی کسی میخواد با خصاست پولدار بشه، بازم از خیلی جهات مثل افراد فقیر به بون بست می رسه. پدر پولدار ادامه داد، به همین خاطرم کسی که فقط به دنبال امنیته هیچ وقت به معنای واقعی احساس امنیت نخواهد کرد و به همین دلیله که وقتی کسی در پی گذاری مطمئن باشه، هیچ وقت حس نمیکنه که گذاریش مطمئنه و همچنین به همین خاطر کسی که همیشه میگه حق با منه، دست آخر به این نتیجه میرسه که در اشتباه بوده. اونا فقط به های یک طرف معادله رو میدن، اما از پرداخت بهای کامل قفلت میکنن. اونا در واقع یک قانون عمومی رو نقض میکنن. کم در تایید حرفهای پدر پولدار گفت به همین خاطر که دعوا کردن به دو نفر نیاز داره. برای اینکه کاراگاه خوبی باشی باید یک کلاهبردار خوبی هم باشی. برای کاستن از خطر باید خطر رو بپذیری. برای پولدار شدن باید بی پولی رو بشناسی. برای شناخت یک سرمایه گذاری خوب باید با یک سرمایه گذاری بعد آشنا بشی. من هم اضافه کردم. به همین خاطر که بیشتر مردم میگن سرمایهگذاری با ریسک همراهه. بیشتر مردم تصور میکنن برای یک سرمایه گذاری ایمن باید بازده سرمایه گذاری رو هم پایین آورد. به همین خاطر افراد زیادی پول خودشونو توی حساب پس انداز می اونا پول خودشونو به خاطر امنیت توی حساب پس انداز میذارن و امیدوارن که در قبال ایمنی سود کمتری نصیب اونا بشه ولی تورم پول اونا رو به مرور میخوره و به سود پول اونا مالیات سنگینی تعلق می گیره. بنابراین ایده پول توی بانک جاش امنه ایده چندان امنی هم نیست. پدر پولدار حرفای منو تایید کرد و گفت، داشتن پول توی بانک بهتر از نداشتن پول توی بانکه ولی این حرف تو هم درسته که میگی این کار اونقدر هم که فکر میکنن ایمن نیست هرچی باشه، این تصور باطل از ایمنی هم هزینه ای داره مایک رو به پدر کرد و گفت ولی شما همیشه میگفتید سرمایه گذاری با ریسک کم و بازده بالا امکان پذیره پدر پولدار پاسخ داد بله، اگر بدونی که داری چی کار میکنی، میتونی برخورداری از امنیت بدون پرداخت مبالغ هنگفت مالیات یا بدون استفاده از پول زیاد، بازم سودی معادل 20 تا 50 درصد به دست بیاری. مایک گفت: پس منظور شما اینه که قیمتی که شما پرداختید بیشتر از قیمتیه که یک سرمایه گذار معمولی حاضر به پرداخت اونه پدر پولدار با تکان دادن سر، حرف مایک رو تایید کرد و گفت: همیشه یادت باشه که هر چیزی قیمتی داره و اون قیمت همیشه با پول سنجیده نمیشه. قیمت خصاست وقتی از کارشناسان پولی میشنوم که میگن کارتای اعتبارتون رو از بین ببرید، اتومبیل دست دوم بخرید و در سطحی پایین از توان مالی خودتون زندگی کنید، منظور اونا رو به خوبی متوجه میشم. ولی همونطور که پدر پولدارم میگفت، هر چیزی هزینه ای داره و هزینه پولدار شدن به وسیله به خرج دادن اینه که آدم در نهایت خسیص باقی میمونه. و به عقیده من پولدار بودن و در عین حال خصاست کردن بهای به بسیار سنگینیه پدر پولدار همچنین می گفت مشکلی در کارت‌های اعتباری وجود نداره بلکه مشکل از بیسوادی اقتصادی دارنده کارت اعتباری نشأت می‌گیره به دست آوردن سواد اقتصادی بخشی از هزینه‌ای که شما باید برای پولدار شدن بپردازید به همین دلیلی که تعداد زیادی از مردم ای به از بین بردن کارتهای اعتباری و زندگی کردن در سطح پایینتری از توان مالیشون ندارن. به نظر من، اگر به مردم حق انتخاب داده بشه، اکثر اونا ترجیح میدن در زندگی پولدار باشن و زندگی خودشون به عنوان افرادی پولدار لذت ببرن و البته میتونن اینجوری باشن، به شرط اینکه حاضر باشن حزینه اونا بپردازن. فصل دوام. بهای یک اشتباه چیست؟ بانک هیچ وقت از من کارنامه را تقاضا نکرده است. پدر پولدار رو. وقتی 15 سالم بود به خاطر اینکه در املا خیلی ضعیف بودم و توانایی نوشتن نداشتم در درس زبان انگلیسی مردود شدم. در واقع باید بگم معلم انگلیسیمون از نگارش من خوشش نمی اومد. این به معنای اون بود که من باید سال دوم رو مجددا بخونم از چند بابت احساس ناراحتی و شرمندگی می کردم. اول این که پدرم سرپرست آموزش و پرورش جزیره هاوایی بود و مسئولیت بیش از چهل مدرسه را در منطقه به احده داشت با پخش شدن خبر مردودی پسر رئیس از مدرسه به مدرسه دیگه در سراسر مراکز آموزشی هرهر هر و خنده به راه بود دوم این که مردود شدن به معنای همکلاس شدن با خواهر کوچکترم بود به عبارت دیگه اون در حال پیشرفت و من در حال پسرفت بودم و سوم این که دیگه از معرفی نامه ورزشی برای بازی در تیم اصلی فوتبال مدرسه که من با تمام وجود براش دوندگی کرده بودم خبری نبود روزی که کارنامامو گرفتم و چشمم به نمره مردودی در درس زبان انگلیسی افتاد تنها به پشت ساختمان آزمایشگاه شیمی رفتم. روی زمین سرد نشستم زانوامو بغل کردم به اون ساختمان چوبی تکیه دادم و زدم زیر گریه چند ماهی بود که در انتظار نمره مردودی بودم ولی دیدن اون در کارنامه‌ام ناگهان باعث شد که کنترل احساساتم رو از دست بدم بیش از یک ساعت در پشت ساختمان آزمایشگاه تنها نشسته بودم تنها خبر خوب این بود که بهترین دوستم مایک یعنی پسر پدر پولدار هم نمره مردودی گرفته بود البته اینکه اون هم مثل من مردود شده بود به خودی خود خبر خوبی نبود ولی لو کسی رو داشتم که در این بدبختی با من شریک باشه وقتی داشت از حیات مدرسه رد میشد، براش دست تکون دادم، ولی اون فقط سری تکون داد و همونطور به راه خودش ادامه داد. اون شب بعد از اینکه خواهر و برادرم خوابیدن، به پدر و مادرم گفتم که در درس انگلیسی مردود شدم و میباید یک مرتبه دیگه سر کلاس های دوم دبیرستان بشینم. تو اون روزا نظام آموزشی طوری بود که وقتی دانش آموزی در درس انگلیسی یا تعلیمات اجتماعی نمره قبولی نمی گرفت، می بایست یک مرتبه دیگه تمامی دروس را از نو بخونه. اگرچه اونا انتظار این خبر رو داشتن ولی قبول کردن این حقیقت که من مردود شدم برای اونا دشوار بود. پدرم آروم نشسته بود و سر خودش رو تکون میداد. از چهره اون نمیشد فهمید که چه فکری تو سرش داره. ولی معلوم بود موضوع برای مادرم خیلی ناگوارت‌تر تموم شده. میتونستم احساسات اون تو چهرش ببینم. احساساتی که داشت از غم و اندوه به خشم تبدیل میشد. بعد مادرم رو به پدر کرد و گفت: حالا چی میشه؟ باید یه سال دیگه توی همون کلاس بمونه، تنها پاسخی که پدرم داد این بود، قوانین اینطور حکم میکنن با این حال خودم موضوع رو بررسی میکنم. تا چند روز بعد پدرم یعنی همون که اسم اون رو پدر بی پول گذاشتم موضوع رو پیگیری کرد. پدرم متوجه شد که از بین سی نفر هم کرا 15 نفر مردود شدند. هشت دانش آموز دیگهم حداقل نمره قبولی رو آورده بودند. یک دانش هم نمره عالی گرفته بود چهار نفر نمره خوب و بقیه نمره متوسط گرفته بودند. اکثر اونایی که مردود شده بودند از بین دانش آموزان زرننگ کلاس دوم دبیرستان بودند. بیشتر بچه های کلاس هم برای رفتن به دانشگاه برنامه ریزی کرده بودند. پدرم وقتی که دید تعداد مرددوی ها اینقدر زیاده وارد عمل شد. اون نه به عنوان پدرم بلکه به عنوان سرپرست آموزش و پرورش به موضوع رسیدگی کرد. در اولین اقدام طی حکمی به مدیر مدرسه ازش خواست که رسما در این باره تحقیق کنه. دانش آموزان و معلم هر دو مرتکب اشتباهاتی شده بودند. تحقیق مذکور با انجام مصاحبه از دانش آموزان کلاس شروع شد و با انتقال معلم به مدرسه دیگر به پایان رسید. توی تابسون کلاس‌هایی برای دانش آموزانی که می‌خواستن از این فرصت برای ارتقای نمرات خود استفاده کنند برپا شد. من توی اون تابسون سه هفته تمام تلاش کردم تا در درس زبان انگلیسی نمره حداقل قبولی رو بگیرم. تا بتونم به همراه سایر همکلاسی هم به کلاس بالاتر برم پدرم به من گوش زد کرد باید از این مشکلی که توی مدرسه برای تو پیش اومد درس عبرت بزرگی توی زندگیت بگیری از این اتفاق میتونی چیزای زیادی یاد بگیری و یا اینکه برعکس هیچ درس عبرتی نگیری؟ میتونی عصبانی باشی معلم و مقصر بدونی و از اون کینه به دل بگیری و یا اینکه به رفتار خودت فکر کنی و خودتو بیشتر بشناسی و با درس گرفتن از این تجربه پیشرفت کنی من معتقدم که معلم شما نباید این همه نمره مردودی به دانش آموزش میداد ولی به نظر من تو و دوستانت باید دانش آموزان بهتری باشید امیدوارم دانش آموزان و همچنین معلمتون از این تجربه درس گرفته باشند. من قبول دارم که نسبت به اون معلم کینه به دل گرفتم و حتی تا امروز هم از اون معلم خوشم نمیاد و بعد از اون ماجرا از رفتن به مدرسه بیزار شدم هیچ وقت دوست نداشتم که منو وادار به خوندن دروسی کنن که علاقه به اونا نداشتم یا اینکه میدونستم با تمام شدن مدرسه دیگه هیچ سر و کاری با اونا نخواهم داشت اگرچه زخمهای زخم های عمیق بود ولی با جدیت و سخت کوشی که خرج دادم نگرش من تغییر کرد عادات درس خوندن من بهتر شد و تونستم به موقع از دبیرستان فارغ و تحصیل بشم علاوه بر این فقط من و یکی دیگر از دانش آموزان در ایالات هاوایی از طرف کنگره دعوت به سبتنام در آکادمی بازرگانی دریایی ایالات متحده آمریکا شدیم من در سال 1969 با درجه کارشناسی از اون آکادمی فارغ و تحصیل شدم. در زمان تحصیل در آکادمی تونستم بر ترس خودم از نگارش غلبه کنم و در واقع یاد گرفتم که از اون لذت هم ببرم ولی باید بگم که به لحاظ فنی هنوز هم نویسنده خوبی به حساب نمیام. در واقع من باید از دکتر نورتون استاد زبان انگلیسیم برای دو سال زحمتی که در آکادمی برای من کشیدن و همینطور کمک به من برای غلبه بر عدم اعتماد به نفس ترس های گذشته و کینهام تشکر کنم. یقیناً اگر دکتر نورتون نبود، من معلف مؤلف روزنامه روزنامه‌های نیویورک تایمز و والستری استریت جورنال نمی‌شدم. از همه مهمتر اینکه به نصیحت پدر بیپولم گوش کردم و از اون وضعیت ناجور بیشترین بهره رو بردم. وقتی به گذشته فکر می‌کنم، می‌بینم که چطور مردودی در درس زبان انگلیسی و مردودی بلقوه در اون سال تحصیلی برای من نعمتی پنهان بوده. اون اتفاق باعث شد تا با سخت کوشی و جدیت، طرز فکر و عادات متعالیم و اصلاح کنم. الان اینو میدونم دونم که اگر توی اون سال در مدرسه خودم و اصلاح نمی کردم، یقینا نمیتونستم در آکادمی هم موفقیتی کسب کنم. نظرات پدر پولدار کسب نمره مردودی توسط مایک، پسر پدر پولدار، از همون معلم باعث ناراحتی پدر پولدار شده بود. اون خیلی خوشحال بود که پدرم در این موضوع مداخله کرده بود و برای اینکه ما بتونیم نمرات مردودی رو جبران کنیم، اقدام به راهاندازی یک کلاس تابستونی کرده بود. با این حال، اون از این تجربه استفاده کرد تا درس متفاوتی به من و مایک بده. من گفتم عمرتون تلف شد. مایک اضافه کرد چه فایده؟ به خاطر کاری که اون معلم کرد ما دیگه هیچ وقت نمیتونیم پیشرفت کنیم. علاوه بر اون، ما مجبوریم که تابستونم سر کلاس بشینیم. من و مایک بعد از مردود شدن در درس زبان انگلیسی خیلی غرلند می کردیم. احساس میکردیم که از بعضی جهات آیندهمون یا لاقل تعطیلات تابستانمون خراب شده. پیش چشممون هایی به اصطلاح باهوش به کلاس بالاتر میرفند و ما رو جا میذاشتند. خیلی از همکلاسی هامون وقتی از کنار ما رد می شدند زیر لب به ما میخندیدند. بعضیا هم ما رو بیعرضه صدا میکردن. بعضی وقتها میشنیدیم که پشت سرمون میگن، اگه نمرات خوبی نداشته باشی نمیتونی به دانشگاه خوب راه پیدا کنی و یا اگر فکر می که انگلیسی مدرسه مشکله پس منتظر باش تا پاتون به دانشگاه برسه. ما هم سعی می این اثار نظرهای بی بیادبانه که بین بچه ها شده بود و با خنده تحمل کنیم. ولی قلباً اذیت می شدیم. واقعیت این بود که ما احساس در موندگی و احساس میکردیم که کسی حاضر نیست به ما کمک کنه. یک روز بعد از اون دوره تابستونی، من و ماک در دفتر پدر پولدار نشسته بودیم و درباره نظرات هامون و احساس خودمون در درباره اونا صحبت کردیم. تو این زمان پدر پولدار که ناخواسته حرفای ما رو شنیده بود، روبروی ما نشست و مستقیما به چشمهای ما نگاه کرد و گفت: من که از این همه آه و شما دو نفر خسته شدم. واقعا خسته شدم از اینکه اینقدر مثل قربانیها و بازنده ها فکر میکنید. اون همونجا نشسته بود و در حالی که توی چشمای ما خیره شده بود گفت: دیگه بس. بابا شما مردود شدید که چی؟ یه بار مردود شدن به معنای این نیست که شما شکست خورده و ناکام هستید. میدونید که خود من تا حالا چند مرتبه شکست خوردم. پس اینقدر از خودتون خجل نباشید و نذارید هم کلاسی شما رو ناراحت کنن. من برای اعتراض گفتم ولی ما نمرههایی بدی گرفتیم این نمره ها برای همیشه با ما خواهند بود. حالا دیگه چطور میتونیم به این دانشگاه یا دانشگاهی خوب راه پیدا کنیم. پدر پولدار گفت؟ توجه داشته باشید که شما دو نفر اگر اجازه بدید که یه نمره بد زندگی شما رو تباه کنه اون وقت دیگه هیچ آیندهی براتون باقی نخواهد موند اگر بذارید که یه نمره بد ماهی شکست شما باشه زندگی واقعی به هر حال شما رو شکست میده زندگی واقعی خیلی سختتر از انگلیسی دوره دبیرستانه اگر معلم زبان انگلیسیتون رو مقصر میدونید و فکر میکنید اون سخت گیر بوده پس وقتی که وارد دنیای واقعی شدید با مواجه شدن با حقایق زندگی شد که خواهید شد دنیای بیرون از مدرسه پر از آدمهایی که به مراتب سنگدلتر و سختگیرتر و پرتوقع‌تر از معلم انگلیسیتونه اگر بذارید که یه نمره بعد و یک معلم انگلیسی آینده شما رو تباه کنه پس دیگه آینده‌ای برای شما وجود نخواهد داشت مایک پرسید در مورد اون بچههایی که ما رو اذیت و ما را مسخره می‌کنن چی میگید پدر پولدار اول توسط می کرد و بعد با خنده گفت این که اهمیتی نداره ببینید چند نفر از خود من انتقاد میکنن ببین رابرت که چند بار پدرت به طور علنی مورد انتقاد قرار گرفته ببینید که تا حالا چند مرتبه اسم ما دو نفر رو توی اخبار گفتن چند بار از من به عنوان یک بازرگان تمکار نام بردن و چند بار از پدرت به عنوان کارمند بی‌انصاف دولت حالا اگر اجازه بدید که یک مش بچه با اون صورت پر از جوش شما رو ناراحت کرده و شکست بدن پس واقعاً شما شکست خورده و درمونده خواهید بود. پدر پولدار ادامه داد یکی از تفاوت‌های افراد موفق با افراد معمولی میزان تحمل اونان نسبت به انتقادهای سایرینه. افراد معمولی خیلی انتقادپذیر نیستند و به همین خاطره که همه عمر یک آدم معمولی باقی میمونن و به همین دلیله که نمیتونن پیشرو باشن. افراد معمولی همیشه از اینکه دیگران چی میگن یا فکر میکنن در هراسند. بنابراین اونا با ترس از اینکه نظر سایرین درباره اونا چیه به زندگی خودشون ادامه میدن و سعی میکنن با سایر افراد معمولی که خودشون در ترس از انتقاد زندگی میکنن کنار بیان. آدما همیشه از همدیگه انتقاد میکنن. میدونی که من از پدرت انتقاد میکنم و میدونم که اونم از من انتقاد میکنه. با این حال ما به همدیگه احترام میذاریم. پدر پولدار در حالی که میخندید اینطور نتیجه گیری کرد. اگر مردم از شما انتقاد میکنن یعنی اینکه اونا لا به شما توجه دارند از این نگران باشید که کسی از شما انتقاد نکنه پدر پولدار در حالی که هنوز می‌خندید گفت شما دو نفر باعث شدید که درباره شما حرف بزنند شما تنوعی رو تو زندگی یک نباخت و ملالاور اونها پدید آوردید اگر بتونید تحمل کردن انتقاد را یاد بگیرید موضوع ارزشمندی رو توی زندگیتون فرا گرفتید اون در حالی که از ته دل می‌خندید گفت ببینید یک سوم مردم بدون توجه به کاری که انجام میدید شما رو دوست خواهند داشت یک سوم از مردم بدون توجه به کاری که انجام میدید خوب یا بد فرقی نمیکنه از شما بدشون میاد. و یک سوم از مردم هیچ اهمیتی به شما نمیدن. کاری که شما باید انجام بدید اینه که نسبت به اون یک سومی که اصلا شما را دوست ندارن بی بیااعتنا باشید. و تمام تلاش خودتون رو کار ببندید تا یک سوم بیطرف رو متقاعد کنید که به جمع یک سومی بپیوندند که شما را دوست دارن همین تنها چیزی که می تونه بدتر از مورد انتقاد قرار گرفتن باشه، عکس اون. یعنی مورد انتقاد قرار نگرفتنه من در حالی که تمام سعی خودمو می میکردم تا موضوع گفتگو رو به درس برگردونم و خنده های پدر رو متوقف کنم این سوال رو پرسیدم که پس حتی بزرگترها هم در ترس از مردم و مورد انتقاد قرار گرفتن زندگی میکنن. نمیدونم چرا این موضوع برای اون خنده دار بود ولی من چیز خندهداری در اون نمیدیدم. پدر پولدار به نشانه تایید حرف من سری تکان داد و با لحن جدیری گفت این ترس شماره یک اکثر انسان هاست به اون ترس از ترد شدن یعنی ترس از متفاوت بودن و بیرون از جمعیت بودن میگن به همین دلیلی که سخنرانی کردن ترس شماره یک و ترسی بدتر از مرگ برای خیلی از مردمه مایک پرسید پس برای همینه که افراد وارد جمع میشن و خودشونو تو جمعیت پنهان میکنن تا از سرزنش شدن در امان بمونن؟ پدر پولار پاسخ داد، بله. و این یک دلیل اونه که تنها افراد بسیار کمی میتونن به ثروتی هنگفت برسند. بیشتر مردم در بین جمعیت افراد معمولی احساس امنیت بیشتری میکنن و در ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن یا ترس از متفاوت بودن زندگی میکنن برای اکثر مردم عادی بودن، معمولی بودن، پنهان شدن، طبعیت محض از هر هرانچه که جمعیت انجام میدهند یعنی زندگی عادی و کنار آمدن با دیگران راحت و آسونه. مایک پرسید منظور شما از این حرفا اینه که تمام این ماجرای مردود شدن ما در درس زبان انگلیسی دست آخر میتونه به نفع ما باشه؟ پدر پولدار به آرامی پاسخ داد به شرط اینکه خودت بخوای اونو به نفع خودت تمام کنی. اگر نه میتونه به ضرر شما تمام بشه. من با کمی ناله گفتم پس نمراتی که گرفتیم چی میشه؟ اون نمره ها در تمام عمر ما رو رها نمیکنن. پدر پولار سری تکون داد و بعد کمی به جلو خم شد. و با اخم گفت، ببین رابرت، میخوام راز بزرگی رو بهت بگم. اون کمی صبر کرد تا مطمئن بشه تا حرف اون رو مستقیما و دقیقا میشنوم بعد ادامه داد، بانکی که توش حساب دارم هیچ وقت از من کارنامم رو درخواست نکرده. من از حرف اون چه خوردم و رشته افکارم پاره شد. آخر داشتم با خودم فکر میکردم که زندگی به خاطر گرفتن نمرات بعد دیگه تباه شده. من که درست متوجه منظور اون از این حرف نشده بودم با صدای ضعیفی پرسیدم منظور شما از این حرف چیه پدر پولدار که به صندلی خودش تکیه کرده بود گفت همون که شنیدی اون میدونست که من حرف اونو شنیدم اون میخواست که این نکته در ذهن من جا بیفته اون خوب میدونست که اون چیزی که گفته بود یکی از عرضش های اصلی بادم یعنی خانواده فرهنگی رو متزلزل میکرد با آرامی پرسیدم اون بانک هیچ وقت سراغی از کارامتون نگرفته؟ یعنی شما میگید که نمرات هیچ اهمیتی ندارن؟ پدر پولدار پرسید من همچین چیزی گفتم گفتم نمرات اهمیتی ندارن؟ با خجالت جواب دادم نه شما این حرفو نزدید پس چی گفتم؟ شما گفتید بانکی که توش حساب دارم هیچ وقت از من کارنامم درخواست نکرده پدر پولدار بدون اینکه منتظر جواب بمونه پرسید، وقتی به بانک میرم، اونجا به من میگن که نمرات خودتو نشون بده. آیا توی بانک از من میپرسن که تو شاگرد اول بودی؟ سراغ کارنامه ما اونا میگن وای چقدر نمرات خوبی آوردی، بزار یه میلیون دلار به شما وام بدیم. اونا همچین چیزی میگن. مایک گفت، من که فکر نمیکنم. لعاقل وقتی که با شما توی دفتر رئیس بانک بودم، کسی سراغ کارنامه شما را نگرفت. و میدونم که اون بر اساس معدل به شما وام نمیده. پدر پولدار پرسید، پس اون سراغ چه چیزی رو میگیره؟ مایک جواب داد، اون سراغ صورت مالی رو میگیره. اون همیشه سراغ ترازنامه ها و آخرین صورت های سود و زیان رو میگیره. پدر پولدار ادامه داد، بانکدارها همیشه سراغ صورت مالی رو میگیرن. بانکدارها از همه سراغ صورت مالی رو میگیرن. راستی، به نظر شما چرا از همه چه فقیر و چه غنی؟ یا تحصیل کرده و بی سواد پیش از اعطای وام صورت مالی را طلب میکنند من و مایک آرام و آهسته با تکان دادن سرمون نشون دادیم که پاسخی نمیدونیم و منتظر جواب موندیم دست آخر مایک گفت من هیچ وقت راجع به این موضوع فکر نکردم چرا خودتون به ما نمیگید پدر پولدار مختدرانه ولی با صدای آهسته گفت چون همین که مدرسه را تمام کنید صورت مالی شما همون کارنامه شما خواهد بود ولی مشکل اینجاست که اکثر مردم موقع فارغ و تحصیل شدن از یک صورت مالی هیچ چیز نمیدونن من با ناباوری پرسیدم همین که فارغ و تحصیل شم صورت مالی من همون کارنامه میشه پدر پولار حرف منو با تکون دادن سرش تایید کرد و گفت این یکی از کارنامه های شماست و کارنامه بسیار مهمی هم هست. کارنامه دیگه شما چکاب پزشکی سالیانه، وزنتون، فشار خون و خوشبختی شما بعد از ازدواجه من پرسیدم پس منظور شما اینه که یک شخص ممکنه در کارنامه مدرسهش نمرات عالی بگیره ولی در طول زندگی در صورت مالیش نمرات مردودی بگیره پدر پولدار حرف منو تایید کرد و گفت اکثر اوقات همینطوره اغلب کسایی که در مدرسه نمرات خوبی میگیرن توی زندگی نمرات مالی ضعیف یا متوسط میگیرن نمرات خوب در مدرسه ارزش دارند صورت‌های مالی در زندگی دارای ارزش هستند. گرفتن نمره مردودی در سن 15 سالگی تجربه خوبی برای من شد چون فهمیدم که دارم نگرش و طرز فکر بدی رو توی ذهنم جا میدم. این تجربه زنگ بیدارباشی برای اصلاح خودم بود. من همچنین خیلی زود توی زندگی متوجه شدم این درسته که نمرات توی مدرسه مهمند ولی همین که پام از مدرسه بیرون بذارم کارنامه من دیگه صورت مالیم خواهد بود. پدر پولدار به من گفت توی مدرسه هر سلس به دانش آموزان کارنامه داده میشه اگر بچه‌ای مشکل پیدا کنه این فرصت رو داره تا اقداماتی مناسب جهت رفع اون مشکل انجام بده ولی توی زندگی واقعی خیلی ها تا زمانی که دیگه خیلی دیر شده کارنامه مالی دریافت نمی‌کنن از اونجایی که خیلی ها کارنامه فصلی دریافت نمی نمیتونن اصلاحات مالی لازم برای زندگی با امنیت مالی رو اعمال کنن این افراد ممکنه شغلی با درآمد بالا خونهای بزرگ، اتومبیلی شیک در اختیار داشته باشند و در کار خود هم پیشرفت داشته باشند ولی در خانه به لحاظ مالی ورشکستند و زمانی متوجه اون میشن که یا خیلی پیر شدن یا اینکه دیگه کار از کار گذشته این بهای به نداشتن کارنامه مالی برای حداقل هر سه ماه یک باره. از اشتباهات خود درس بگیرید هیچ کدوم از پدرهای من از این موضوع که پسرشون توی مدرسه مردود شده دل و دماغ نداشتند. ولی هیچ کدوم از اونها با ما مثل بی ارزه ها برخورد نکردند در عوض اونا ما رو تشویق کردن تا از اشتباهات خودمون درس بگیریم همونطور که پدرم به عنوان یک معلم مدرسه به من گفت شکست خوردن یا مردود شدن هر کدوم یک فعل هستند و اسم نیستند متاسفانه خیلی از مردم فکر میکنن وقتی شکست میخورن دیگه اسم اونا شکست خورده است اگر مردم یاد بگیرن که از اشتباهات خودشون درس بگیرن اون وقت مثل کودکی که با زمین خوردن‌های مکرر دوچرخه سواری یاد می‌گیره، افق‌های جدید در مقابل چشم اونها گشوده میشه. اگر اونا با جماعتی همراهی کنن که از اشتباه کردن پرهیز میکنن، یا در مورد اونا دروغ میگن، یا برای اشتباهات خودشون تقصیر رو به گردن سایرین میندازن، در این صورت از شیوه ابتدایی که برای آموختن انسانها طراحی شده، یعنی اشتباه کردن و آموختن از اشتباهات، خودشونو محروم می اگر من تو سن پونزده سالگی در درس زبان انگلیسی مردود نمی شدم، شاید هیچ وقت از دانشگاه فارغ و تحصیل نمیشدم و شک دارم که هیچگاه یاد میگرم که در تمام عمر کارنامن پس از اتمام مدرسه صورت مالی شخصیم خواهد بود. اون اشتباه در سن پونزده سالگی برای من بسیار ارزشمند بود. دلیل اینکه فقط تعداد اندکی به ثروت هنگفت دست پیدا میکنن فقط به این خاطر اونا به اندازه کافی اشتباه نمیکنند. اگر بخوایم از اشتباهات درس بگیریم این اشتباهات میتونن بسیار ارزشمند باشند. افرادی که اشتباه میکنن ولی هنوز یاد نگرفتن که از اشتباهات خودشون درس بگیرن اغلب همون کسایین که مدام میگن تقصیر من نیست این کلمات از دهان کسانی خارج میشه که یکی از بزرگترین محبتهای زندگی یعنی محبت اشتباه کردن رو زایه میکنن زندانا پر از افرادی که مدام میگن من بی‌گناهم تقصیر من نبود خیابوناپ پر از کسایی که زندگی ناشادی دارند چون فقط هر اون چه که در خونه یا مدرسه یاد گرفتن رو تکرار میکنن ریسک نکن اشتباه نکن اشتباهات بد هستند کسایی که خیلی اشتباه میکنن بی هستند وقتی که من برای گروهی از مردم سخنرانی میکنم اغلب میگم امروز در مقابل شما ایستادم چون از اکثر شما بیشتر مرتکب اشتباه شدم و بیشتر از اکثر شما پول از دست دادم به عبارت دیگه، هزینه پول دار شدن، تمایل به اشتباه کردن، قبول اشتباه بدون سرزنش و توجیه کردن و درس گرفتن از اشتباهاته. کسانی که اغلب موفقیت چندانی در زندگی به دست نیاوردن، کسانی هم که تمایلی به اشتباه کردن ندارند و یا این که اشتباه کردن ولی هنوز از اون اشتباهات درسی یاد نگرفتن. بنابراین، هر روز از خواب بر میخیزند و باز هم مرتکب همون اشتباه میشن. و هیچ وقت درس عبرت نمیگیرن. فصل فصل و بهای تحصیلات چیست؟ فقط دو چیز را میتوانی توانی سرمایه گذاری کنی زمان و پول پدر پولدار بعضی وقتا از من می‌پرسن آیا منظور شما اینه که تحصیلات لزومی نداره من با تأکید جواب می‌دهم خیر من همچین منظوری نداشتم و ندارم تحصیلات امروزه بیشتر از هر زمان دیگه اهمیت پیدا کرده منظور من اینه که نظام آموزشی از زمان عقب مونده این یک نظام قدیمی مربوط به عصر صنعت که می‌کوشید خودش رو با عصر اطلاعات مطابقت بده ولی متأسفانه در این انطباق موفق نبوده به نظر تاریخ نویسان اقتصادی در سال 1989 میلادی با فروریختن دیوار برلین و گسترش اینترنت عصر صنعت به پایان عمر خودش رسید و عصر اطلاعات رسما آغاز شد. چرا امنیت شغلی مشکل محصوب نمی شود؟ پدر و مادر من دوران رکود بزرگ اقتصادی آمریکا را تجربه کردند. این رویداد تاریخی نگرش عاطفی و ذهنی اونا را تحت تاثیر قرار داده. به همین خاطری که اونا اغلب بر روی اهمیت گرفتن نمره‌های خوب و پیدا کردن یک شغل ایمن و مطمئن تاکید می‌کردند امروزه امنیت مالی و نه امنیت شغلی مسئله اصلی محسوب میشه زمان تأخیر چیست زمان تأخیر مدت زمان بین ادراک یک ایده نو و پذیرش اون از سوی صنعته. توی دنیای کسب و کار صنعت آموزش و پرورش و صنعت ساختمان طولانی ترین زمانهای تأخیر رو به خودشون اختصاص میدن در صنعت رایانه زمان تأخیر حدود یک ساله زمان تأخیر در صنعت هوافضا دو ساله این بدان معناست که فقط دو سال طول میکشه تا ایده این نو درک بشه و سپس در اون صنعت مورد استفاده قرار بگیره در صنای آموزش و پرورش و ساختمان زمان تأخیر تقریبا معادل پنجاه ساله خیلی از مردم امیدوارند که مسئولان نظام آموزش و پرورش به این نتیجه برسن که عصر صنعت به سر اومده. ولی من که فکر نمی‌کنم اونا این موضوع رو تا سال 2040 درک کنن. و یه دلیل که بسیاری از والدین بچه‌های خودشون از مدرسه بیرون آوردن و توی خونه بهشون آموزش میدن همینه. نه تنها صنایه، بلکه آدم‌ها میتونن داری زمان تأخیر باشن. در اصر صنعت این مساوی است با MC2 فرمول آن دوران بود. در طول عصر صنعت دو عبر قدرت همه چیزو تحت کنترل خودشون داشتند و مردم با ترس از وقوع یک جنگ هسته بین اونا زندگی میکردن. در عصر اطلاعات اینترنت مجال کنترل کردن و گرفته. الان کنترل در دست قانون مره این قانون میگه که اطلاعات و فناوری با چنان سرعتی در حال پیشرفته که هر 18 ماه یک بار به دو برابر افزایش پیدا میکنه معنی اون اینه که هر کدوم از ما لازمه که در طول هر 18 ماه اطلاعات رو دو برابر کنیم در غیر این صورت باید خطر عقب موندن رو بپذیریم به همین خاطره که در عصر اطلاعات سرعت یادگیری از چیزی که یاد میگیریم با اهمیت تره امروز کسایی که اطلاعات قدیمی دارن خطرناکه در عصر اطلاعات با گذشت 18 ماه هر اطلاعاتی میتونه قدیمی تلقی بشه. دیگه کسی دلش نمیخواد به حرفای کسی گوش کنه که زمان تأخیر داره یا اینکه پاسخهای اون قدیمی و کهنه هستن. پاسخهای قدیمی شاید به درد مسابقات تلویزیونی یا جایزه های میلیونی بخوره ولی به درد دنیای واقعی نمیخوره. پس چه نوع تحصیلاتی در اصر اطلاعات لازم دارم؟ از بسیاری جهات هر دو پدرم آموزگارانی بزرگ بودند. اونا هر چیزی که فکر میکردند مهمه رو به من یاد میدادند، ولی اونا چیزهای متفاوتی رو یاد میگرفتند. تو فهرستی که الان میخوام بگم چیزایی که من از دو پدرم آموختم و خلاصه کردم اگرچه دروس آموزشی زیادی وجود داره مثل ورزش، موسیقی، هنر و تعلیمات دینی که همه اونها هم مهم هستند ولی این دروس سه دسته اصلی تعلیماتی هستند که برای داشتن حداقل امنیت در اصر اطلاعات مورد نیازند یک تعلیمات عمومی مثل آموزش خواندن، نوشتن و حساب کردن دو، تعلیمات حرفه‌ای آموزش مهارتهای کار کردن برای کسب پول مثل آموزش پزشکی، وکالت، لول کشی، منشیگری، برخکاری یا معلمی سه، تعلیمات مالی آموزش اینکه چجوری پول رو وادار کنیم تا سخت برای ما کار کنه بدیهیه که هر سنو این آموزش ها خیلی مهمند اگر کسی نتونه بخونه یا بنویسه یا جمع و تفریق کنه زندگی براش خیلی سخت میشه متاسفانه امروز خیلی از دانش آموزان در حالی از مدرسه فارغ و تحصیل میشن که مهارت کافی در این علوم پایهی رو کسب نکردن برای خود من که مدرسه کسل کننده و بی ربط بود من تو مقایسه با والدینم اون هم انگیزه کسب نمرات خوب برای به دست آوردن امنیت شغلی نداشتم درسته که تحصیلات بیشتر از هر وقت دیگه اهمیت پیدا کرده ولی نظام آموزشی ما پا به پای زمان پیش نیومده. و در حالی که ما منتظر تحول و جبران عقب موندگی نظام آموزشی هستیم تحصیلات دانش آموزان قربانی میشه. پدر واقعی من زمانی رئیس اتحادیه معلمان در هاوایی بود. به خاطر زندگی با اون من اهمیت اتحادیه برای معلمان رو درک می کنم و خیلی از نگرانی های معلمان رو تایید می کنم. من همچنین نگران آثار بلند مدت آموزش ناکافی بر دانش آموزان اونم در زمانی که تحصیلات حیاطی از هر زمان دیگهی هستم. وقتی نگاهی به آموزش حرفه‌ای بندازید متوجه میشید که اهمیت اون خیلی هم زیاده. به عنوان مثال کسی در موقع فارغ تحصیل شدن با دیپلم دبیرستان میتونه ساعتی 10 دلار درآمد داشته باشه. ولی اگر همین شخص مدرک دانشکده برق رو بگیره، درآمد اون به راحتی به 50 دلار یا بیشتر در ساعت افزایش پیدا میکنه. وقتی اختلاف 40 دلاری رو ضرب در 8 ساعت در روز، 5 روز در هفته، 52 هفته در سال در مدت چهل سال کنید متوجه میشید که سرمایهگذاری در تحصیلات حرفه میتونه یکی از بهترین بازده های زمان و پول را برای شخص به همراه داشته باشه. اکثر پزشکان ده تا 15 سال از عمر خودشون رو پس از اتمام دبیرستان صرف تحصیلات پزشکی میکنن. به همین خاطر اونا فکر میکنن استحقاق دستمزدی بیشتر از بقیه را دارن. چه در مدرسه درسمون خوب باشه چه بد و یا اینکه در آینده چه دکتر بشیم چه یک دربان؟ همه ما به آموزش مالی پایه نیاز داریم. چون صرف نظر از هر عملی کردی که داریم یا اینکه چه شغلی داشته باشیم، همگی با پول سر و کار داریم. من اغلب در شگفتم که چرا توی مدرسه چیزهای بیشتری درباره پول به بچه ها یاد نمیدن. آخه چرا نظام آموزشی اینقدر به نمرات و کارنامه توجه داره در حالی که در دنیای واقعی در بانک هیچ وقت از من نخواستند که کارنامه‌امو به اونا نشون بدم. من اغلب از معلم‌ها این می می‌پرسم و اونام جواب میدن؟ ما هم توی مدرسه اقتصاد درس میدیم. یا خیلی از دانش آموزایی ما هم سرمایه گذاری تو بازار سهامو یاد می گیرن. یا ما هم دوره های کسب و کار برای دانش آموزان علاقه من به این زمینه برگزار می کنیم. من متوجه هستم متصدیان در این نظام آموزشی هر چیزی رو که می دونن به دیگران یاد می دن و نهایت سعی خودشونو رو در این باره می کنن، با این حال اگر از اکثر مدیران بانک ها سوال کنید اونا به شما میگن که به دنبال چیزی بیشتر از سبد اوراق بهادار یا نمرات دانش آموزان در درس اقتصاد هستند برای اکثر مردم خواه بسیار تحصیل کرده خواه کم سواد این دانسته های اونا نیست که برای اونا خرج داره بلکه این ندانسته های اونا که برای اونا خرج برمیداره. اجازه بدید تا فقط یک موضوع جهت نشون دادن نیاز به آموزش های مالی روشن تر کنم و اون موضوع مالیات اکثر ما میدونیم که مالیات ها بالاترین هزینه رو برای ما دارن ما برای درآمد، خرج، پسنداز و سرمایه گذاری باید مالیات بپردازیم. حال درصد بالای مالیات هایی که یک کارمند می‌پردازه با درصد کمی که یک مالکی کسب و کار پرداخت می‌کنه رو مقایسه کنید. تفاوت این مبلغ در طول چهل سال آوره. یکی از دلایل این که چرا افرادی که به مدرسه میرن نمرات خوب میگیرن و شغل خوبی هم پیدا میکنن بازم به لحاظ مالی مشکل دارن اینه که بیشتر پول به جیب دولت میره همون دولتی که به تعلیم و تربیت ما یا عدم تعلیم و تربیت ما اشتغال داره در حالی که مالیات فقط مسئلهی کوچیک در دنیای پهناور آموزش مالیه حالا ببینید چه بلایی سر کسی میاد که نمیتونه حتی یک صورت مالی رو بخونه و اصولا نمیدونه که یک صورت مالی چیه یا چه اتفاقی برای کسی میافته که تفاوت بین دارایی و بدهی، طلب وصول شدنی و طلب غیرقابل قابل وصول، بدهی در مقابل دارایی خالص یا تفاوت بین درآمد غیر فعال، درآمد مکتسب یا درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار رو نمیدونه؟ نبود همین دانش پایه‌ای مالی که هوش مالی فرد رو تضعیف میکنه. و نبود هوش مالی باعث میشه خیلیها سخت کار کنن، پول زیادی هم دردیارن. ولی از نظر مالی هیچ وقت پیشرفت نمیکنن. این افراد شاید از امنیت شغلی برخوردار باشند، ولی هرگز به امنیت مالی دست پیدا نمی کنن. پدر پولدارم اغلب به من می گفت هوش مالی این نیست که چقدر پول در میاری بلکه اینه که چقدر از پول رو حفظ می کنی چقدر اون پول به نفع تو کار کنه و اون تا چند نسل بعد از تو باقی بمونه دلیل اصلی این که فرزندان خانواده های فقیر و متوسط زندگی خودشونو با مالی شروع موند اینه که والدین اونها سرمایه اولیه‌ای رو در اختیار اونها قرار نمیدن. اضافه کردن شغل و حقوق بازنشستگی به وصیت‌نامه تقریباً غیر ممکنه. من این وضعیت رو خودم تجربه کردم چون پدر و مادرم پس از فوت پول خیلی کمی برای ما به ارث گذاشتند که نمیشد به اون پیشرفت کرد. ولی پدر پولدار برای بچه هاش میلیون ها دلار به ارث گذاشت که این باعث میشد اونها نسبت به دیگران در ابتدای زندگی دارای مزیت و برتری باشند. تخمین زده میشه که جان کندی پسر موقع فوت صدها میلیون دلار برای هر کدوم از دو خواهرزاده به ارث گذاشته. لحظه تصور کنید که اگر کسی صد میلیون دلار به عنوان سرمایه اولیه به شما میداد، الان وضع شما چقدر فرق میکرد. به جای اینکه از خواب بیدار بشید و سر کار برید، چه تغییراتی توی زندگیتون ایجاد میکردید؟ آموزش مالی مقدماتی. وقتی مردم از من میپرسن چه کار کنم تا دانش مالیم ارتقا پیدا کنه؟ من همیشه پاسخ میدم؟ از رئیس بانک خودتون بپرسید که چه چیزی برای اون اهمیت داره تا متوجه بشید از نظر مالی چه چیزی مهمه. و به همین خاطری که بهترین اشتباهی که تا به حال مرتکب شدم همون گرفتن نمرات بعد در دوره دبیرستان بود. اگر اون نمرات بد و در دوران دبیرستان نگرفته بودم، شاید هیچ وقت متوجه نمیشدم که رئیس بانک اهمیتی برای نمرات من قائل نیست. رئیس بانک فقط سراغ صورت مالی منو میگیره و همونطور که گفتم اکثر دانش آموزان در موقع اتمام دوره دبیرستان چیزی از صورت مالی نمیدونن اکثر مردم به جای تسلیم صورتهای مالی که خودشون تنظیم کردن به پر کردن فرم صورت مالی که بانک در اختیار اونا قرار میده بسنده میکنن اکثر مردم وام گرفتن و معادل التماس کردن برای دریافت پول میدونن در حالی که شما با ارائه دلایل موجه به رئیس بانک بهش میگید که چرا باید به شما پول قرض بده همیشه به یاد داشته باشید که وظیفه بانک اعطای وامه. نه اینکه تقاضاهای مردم را رد کنه بانک ها تا وام ندن پولی نصیبشون نمیشه به همین خاطری که وقتی رئیس بانک تقاضای شما رو رد میکنه مثل اینه که معلم به آموز خودش بگه که تو نمرات مردودی گرفتی به جای عصبانی شدن از دست رئیس بانک زمان مناسبی که ازش سوال کنید که کجای کارتون ایراد داره و اینکه چه کار میتونید بکنید تا صورت مالی خود که پس از و تحصیل شدن کارنامه واقعی شما محسوب می شود بهبود ببخشید چه چیزی در صورت مالی شما بیشتر از همه اهمیت دارد؟ افراد مختلف به چیزهای مختلفی توی یک صورت مالی نگاه میکن نگاه کردن به صورت مالی مثل خوندن قصه زندگی یک فرده صورت مالی میزان دانایی یا نادانی مالی شخص در مورد پول خودش رو نشون میده در اینجا برخی از چیزهایی که پدر پول دارم به من یاد داده که در موقع بررسی صورت مالی به اونها توجه داشته باشم و با شما در میون میذارم. صورت مالی مورد استفاده برگرفته از بازی جریان نقلی 101 که من برای آموزش سواد مالی و مقدمات سرمایه گذاری تدوین کردم. سنو درآمد. پدر پول دارم اهمیت سنو مختلف درآمدو و به هم یاد داد. یک درآمد عادی 2. مجموعه اوراق بهادار 3. غیر غیرفعال امروز وقتی به صورت مالی یه فرد نگاه میکنم، معمولا تنها با نگاه کردم به ستون درآمد میتونم بگم که اون شخص در آینده پولار، فقیر یا از قشر متوسط جامعه خواهد بود. در ادامه یک فرم صورت مالی برگرفته از بازی جریان نقدی 101 رو بهتون میگم. این بازی نحوه عمل صورتهای مالی رو به مردم آموزش میده افراد فقیر و قشر متوسط توجه خودشونو معطوف معتوف به حقوق میکنن که درآمد مکتسب عادی هم نامیده میشه اونا طالب شغلی هستن که بالاترین حقوق ممکن داشته باشه شانس پولدار شدن با درآمد مکتسب عادی تقریبا معادل صفره چون هر بار که حقوق شخص افزایش پیدا میکنه هزینا بالا میره علاوه بر اون، هر وقت شخص کار کردن را متوقف کنه، درآمد عادی اون هم متوقف میشه. شخصی شانس خوبی برای پولدار شدن داره که از درآمد حاصل از دارایی‌هایی مثل کسب و کار و املاک که کمترین میزان مالیات به اونها تعلق میگیره برخوردار باشه. همچنین از درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام اوراق مشارکت و سایر سرمایه‌گذاری‌ها بهره مند باشه. افراد پولدار به های ناشی از درآمدهای غیرفعال و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار توجه می‌کنند. این درامت ها افراد پولدار را پولدارتر کند. فرزندان کندی هیچ وقت به کار کردن نیاز نداشتند. اونها هیچ وقت به فیش حقوقی هم احتیاج نداشتند. چون نسل قدیمیتر کندی میدونستند که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و درآمد غیرفعال درآمد افراد پولداره. فرزندان کندی خودشون میخواستن که کار کنن ولی احتیاجی به کار کردن نداشتن. اگر اونا مالک سبد اوراق بهادار به ارزش یکصد میلیون دلار بوده باشن، در این صورت درآمد غیرفعال و درآمد حاصل از اوراق بهادار بیشتر از مبلغ کافی برای یک زندگی به سبک افراد پولدار و معروف بوده. بازی جریان نقدی 101 برای افرادی که در مورد پولدار شدن جدیت دارند مهمه چون این بازی به اونها یاد میده که چجوری درآمد معمولی یعنی همون درآمد افراد فقیر و متوسط رو به درآمد غیر فعال و درآمد حاصل از سبد اوراق بهادار یعنی همون درآمد افراد پولدار تبدیل کنه پولدار شدن اون هم فقط با درآمد معمولی تقریبا غیر ممکنه متاسفانه این کاریه که اکثر مردم سعی در انجام اون دارن از اون مهمتر اینکه نحوه کارکرد صورت مالی که گاهی با مطالعه یک کتاب یا با چند مرتبه محدود بازی کردن نمیتوان اون رو یاد گرفت به وسیله این بازی آموزش داده میشه. به دلیل اینکه ما با تکرار کردن یاد میگیریم، انجام مکرر این بازی به بازیکن در تسلط نسبت به های فنی صورت مالی که دیگر کارنامه شما تلقی میشه کمک شایانی میکنه. با تکرار آموزش نحوه کارکرد واقعی صورت مالی از طریق این بازی، اهمیت درآمد غیرفعال و درآمد حاصل از سبد اوراق بهادار یعنی درآمد افراد پولدار تقویت میگردد. این بازی تفاوت بین بدهی خوب و بدهی بد رو هم یاد میده با بازی پی, در پی اصل برنامه ریزی سخت کار کردن برای پول درآوردن که اکثر ما در خانه و در مدرسه یاد گرفتیم و کنار خواهید گذاشت این بازی مفاهیم مربوط به این که چجوری پول میتونه برای شما کار کنه رو در ذهن شما جا میندازه. چه کسی به امتحانات شما نمره یکی از دلایل مهم گرفتن کارنامه در مدرسه اینه که میزان پیشرفت شما و اینکه چه چیزی لازم اصلاح بشه رو به شما نشون میده وقتی که کسی از صورت مالی خودش که اکنون پس از فارغ و تحصیل شدن از مدرسه جای کارنامه رو گرفته مطلع نباشه پس از میزان پیشرفت مالی خودش هم چندان اطلاعی نداره خیلیا نمیتونن توانایی های کسب درآمد خودشونو به حد اکثر برسونن و بیشتر زندگی خودشونو از نظر مالی به تقلا کردن و دست و پا زدن سپری میکنن پدر بیپولم که توی مدرسه شاگرد اول بود تا زمانی که شغل خودشو در سن پنجاه سالگی از دست داد واقعا متوجه نشده بود که از نظر مالی شکست خورده قسمت غم این قصه اینه که اگرچه اون میدونست در سن 50 سالگی با مشکل مالی مواجه شده ولی نمیدونست که درباره اون چه اقدامی انجام بده. همه اون چیزی که میدونست این بود که دخل و خرجش با هم جور نبودند. این بهای ندونستن نحوه تنظیم و خوندن صورت مالی و چگونگی خودکنترلی پس از مواجه شدن با یک شکست مالی. با بازی جریان نقدی شما بهتر به اهمیت صورت مالی خود که همون کارنامه زندگی شماست پی خواهید برد. وجدان مالی شما حسابرس خیلی اوقات وقتی بازی کردن افراد رو در یک سمینار نظارت میکنم متوجه میشم که بازیکنان ردیف حسابرس رو تکمیل نمیکنن وقتی ازشون میپرسم که چرا این ردیف خالی گذاشتن اونا اغلب پاسخ میدن مهمه یا من که لازم ندارم کسی کارمو بازنگری کنه در این زمان من سختگیری بیشتری میکنم و بهشون یاد میدم حسابرس که در این مورد بازی دیگری است یکی از مهمترین جنبههای بازیه این بازی برای تقویت عادات خوب مالی طراحی شده و بازنگری شدن صورتهای مالی به صورت منظم عادت مالی ضروری برای هر کسی محسوب میشه که میخواد پولدار بشه از خیلی جهات حسابرس مانند معلم شما تو مدرسه است که کارهای شما رو مرتباً مرور میکنه میزان پیشرفت شما رو یادآوری میکنه و به شما در انجام اصلاحات لازم کمک میکنه من و همسرم کیم عادت کردیم که ماهی دو مرتبه نسبت به حسابرسی مالی خودمون اقدام کنیم. حسابدار ما وارد میشه. صورت‌های مالی و دفاتر حسابداری ما بررسی میشن و زندگی مالیمون هر دو ماه یک بار مو به مو بازنگری میشن. وقتی که ما با مشکلات مالی و کمبود نقدینگی مواجه بودیم انجام این مراحل واقعا رنجآور بود. این اقدامات مثل این بود که به یک کارنامه پر از نمرات مردودی و ضعیف نگاه کنیم. ولی از اونجایی که ما از اشتباهات خودمون درس می گرفتیم، اونا را اصلاح می کردیم و وضعیت مالی خودمون رو بهبود میبخشیدیم. بخشیدیم. جلسات حسابرسی دو ماه یک بار برای ما حالت تفریح پیدا کرده بود. مثل گرفتن کارنامه‌ای پر از نمرات عالی، حس خوبی از آموزش که قبلا ازش بی اطلاع بودیم، برای من در پی داشت. وقتی که من و کیم در سال 1985 کار خودمون رو شروع کردیم، در صورتهای مالیمون چیز زیادی وجود نداشت. فقط بدهی سنگین از دوران مصیبت‌های مالی گذشتم که در ستون بدهی ها به چشم می‌خورد و ما چیزی در ستون دارایی‌های ما نداشتیم دیدن صورت‌های مالیمون بسیار ناخوشایند بود این کار مثل نگاه کردم به فیلم رادیولوژی یک بیمار سرطانی بود و برای من این یک سرطان مالی بود در حال حاضر تعداد های ستون دارایی قابل توجه هستند تعداد های ستون درآمد عادی غیر فعال و سبد اوراق بهادار و همچنین تعداد صفرها بعد از هر رقم افزایش یافتند درآمد ناشی از درآمد غیر فعال و سبد اوراق بهادار خیلی زیادتر از حزینه مون در ستون هزینه هاست در سال 1985 ما مجبور بودیم که برای زنده موندن کار کنیم ولی امروز ما کار میکنیم چون خودمون دلمون میخواد که کار کنیم من شک دارم که این بدون آموزش مالی پدر پول دارم امکان پذیر می بود. بدون آموزش های اون من چیزی درباره اهمیت صورت مالی نمیدونستم. من فرق بین درآمدهای عادی سبد اوراق بهادار و غیر فعال نمیدونستم. من چیزی از اهمیت شرکت‌ها و نحوه حفاظت از دارای هام و به حداقل رسوندن مالیات ها نمیدونستم. من اهمیت انجام حسابرسی دوبار در ماه و اینکه چرا آزمایش شدن و نمره گرفتن دوبار در ماه برای آزادی مالی ضروریه را درک نمیکردم. با آموزش مالی پدر پول دارم، من بدون از بین بردن کارت اعتباریم یا برنده شدن در قرعه کشی یا شرکت در مسابقات تلویزیونی پول دار شدم. ستون درآمد امروز من. امروز ستون درآمد منو کیم به این شکله. درآمد مکتسب عادی 10 درصد. درآمد سبد اوراق بهادار 20 درصد. درآمد غیر فعال 70 درصد. چند روز پیش یک گزارشگر روزنامه از من سوال کرد چقدر پول درمیاری؟ فیش حقوقی چقدره؟ من در پاسخ گفتم خیلی نیست. من ترجیح میدم که میزان فیش حقوقیمو نگم. فقط میتونم بگم که مبلغ اون به اندازه مبلغ فیش حقوقی تو نیست. اون سری تکان داد و پوسخندی زد و گفت پس چطور میتونی کتابی درباره پول بنویسی؟ اون در ادامه گفت از نویسندگانی که درباره روابط می نویسند ولی خود رابطه ای ندارند و نویسندگانی که درباره پول مطلب می نویسند، ولی خودشون پول ندارند، متنفر است. مصاحبه تمام شد و او آنجا را ترک کرد. الان که اطلاعات مالی شما ارتقا پیدا کرده، شاید دلیل پاسخ منو متوجه شده باشید. مبلغ فیش حقوقی من خیلی کمه. چون همون درآمد مکتسب عادیه که بیشترین میزان مالیات بهش تعلق می گیره. چرا اصلا باید فیش حقوقی با مبلغ بالاتری داشته باشم وقتی دولت سهم بیشتری از اونو برمی‌داره؟ من ترجیح میدم که درآمد غیرفعال و درآمد حاصل از سبد اوراق بهادار بیشتری داشته باشم تا بتونم اونا اونارو برای خودم نگه دارم یکی از بزرگترین مزایای اطلاعات مالی میزان کنترل چشمگیری که شما در پرداخت مالیات که بزرگترین هزینهتون تلقی میشه پیدا میکنید درآمد حرفه‌ای نکته دیگه‌ای که باید بدونید اینه که درآمد امروز من از تحصیلات حرفه‌ای نیست بعد از فارغ تحصیل شدن از دبیرستان به آکادمی دریا نوردی بازرگانی آمریکا رفتم و بعد از اتمام تحصیلات به عنوان متصدی کشتی های تانکر حملبار و مسافربری مشغول به کار شدم همچنین من به دانشکده هوانوردی نیروی دریایی آمریکا در پنساکولای فلوریدا رفتم و در اونجا به تحصیل خلبانی حرفه‌ای پرداختم امروز من هیچ درآمدی از این دو حرفه ندارم بخش زیادی از درآمد غیر فعال من از درس یکی در مدرسه ازش نمره مردودی گرفتم اگر به یاد داشته باشید تو سن پونزده سالگی کلاس دوم دبیرستان به دلیل اینکه نمیتونستم خوب بنویسم تقریبا داشتم مردود می شدم به خاطر این شکست من تلاش کردم و امروز به جای خلبان یا متصدی کشتی بیشتر منو و عنوان یک نویسنده می شناسن. تفاوت این دوتا معادل میلیون ها دلاره. به عبارت دیگه من از شکستام خیلی بیشتر از موفقیتام پول درآوردم. در عصر اطلاعات خیلی از ما بیش از یک شغل داریم. برای همین مهم نیست که چه چیزی رو یاد می‌گیریم، بلکه مهم اینه که با چه سرعتی یاد می‌گیریم. قانون مور که میگه اطلاعات هر 18 ماه دو برابر میشه رو فراموش نکنید. تعداد پاسخهای صحیح شما یا نمرات خوبی که در مدرسه می گیرید معیار موفقیت شما تو زندگی محسوب نمیشن. معیار موفقیت شما تعداد پاسخهایی که نمیدونید، تعداد دفعات شکست، مقاومت کردن، درس گرفتن از اشتباهات، انجام اصلاحات بدون سرزنش کردن، یا دروغ گفتن، یا توجیه کردن و سپس رو به جرا حرکت کردنه. تعریف بازنده اگر می‌خواید بدونید که کارنامه مالی شما چقدر اهمیت داره، فقط کافیه سری به بانک محلی خودتون بزنید. فرم صورت مالی شخصی خودتون رو تکمیل کنید و امیدوار باشید که درخواست وام شما رد بشه. اگر هم درخواست شما رد نشد، پول بیشتری درخواست کنید. بعد از اینکه درخواست شما رد شد، بشینید و از اونا بپرسید که چه کاری میتونید برای بهبود وضعیت کارنامه مالیتون انجام بدید. آموزشی که اونجا دریافت میکنید میتونه بسیار ارزشمند و متحول کننده زندگیتون باشه. همونطور که گفتم، اگر می‌خواید بدونید که توی دنیای واقعی چه چیزی اهمیت داره، اینا از بانک بپرسید. اونا هر روز به کارنامه های مردم نگاه میکنند. اما این سوال پیش میاد که اگر متصدیان بانک ها این همه اطلاعات دارن پس چرا خودشون پولدار نیستن و پس چرا هنوز هم برای بانک کار میکنن و به امور سایرین رسیدگی میکنن. پاسخ در قانون نیوتون که قبلا توی این کتاب گفتم نهفته. قانون نیوتون میگه که برای هر عملی عکس عملی و خلاف جهت اون وجود داره. همچنین اینجوری میشه پاسخ داد. که برای اینکه پلیس خوب، صادق و موفق باشی، باید خلافکارا رو به خوبی بشناسی. یا اینکه هر سکه دو داره، هر پرنده دو بال داره و ما دو پا، دو دست و دو چشم داریم. دلیل اینکه اکثر متصدیان بانک خودشون پولدار نیستن، اینه که اونا بیش از اندازه محتاط هستن. برای پولدار شدن، علل خصوص وقتی آدم از صفر شروع میکنه، لازمه علاوه بر متصدی خوب بانک بودن، ریسکپذیری بالایی هم داشته باشه. ولی اکثر متصدیان خوب بانک ریسک پذیری ندارند ندارن همونطور که پدر پولدارم گفت آدم باید دو برابر هزینه رو بپردازه برای پولدار شدن شخص باید هم هزینه متصدی خوب بانک بودن و هم هزینه ریسک پذیری بالا رو بپردازه ولی اشخاص اکثرا هر دو هزینه رو با هم پرداخت نمی کنن. پدر پولدار به من و مایک گفت دلیل اینکه متصدیان پولدار نیستن اینه که اونا ریسک پذیری ندارن. و دلیل اینکه اکثر اونایی که ریسک پذیری دارن ولی پولدار نیستن، اینه که اونها متصدیان خوب بانک نیستند. من ازش پرسیدم، منظور شما اینه که اکثر مردم یا این طرفی هستند یا اون طرفی؟ یا ریسک پذیرن یا متصدی بانک؟ اون پاسخ داد؟ نه، متاسفانه اکثر مردم بازنده مالی هستند. من که یکی خورده بودم گفتم، بازنده؟ مردم سزاوار چنین لغبی هستن؟ پدر پولدار در دفاع از خود پاسخ داد، من گفتم بازنده مالی و اصلا قصد توهین به هیچ کسو ندارم. بذارید قبل از اینکه منو آدم بیره تلقی کنید معنی بازنده رو برای شما بازگو کنم. من هم با حالتی تدافعی گفتم؟ بله لطفا معنی اونو برای ما بگید پدر پولدار گفت: « تعریف من از بازنده کسیه که ظرفیت باختنو نداره. من در حالی که نهایت سعی خودمو می کردمم تا از تعریف پدر پولدار سر در بیارم گفتم، کسی که ظرفیت باخت رو نداره؟ پدر پولدار با آرامی گفت: اجازه بدید کمی توضیح بدم. وقتی صحبت از پول میشه، اکثر بزرگترها ظرفیت باختن رو ندارن. امروز خیلی ها روی خط قرمز زندگی میکنن اگر در مورد خودرو رو اطلاع داشته باشید، خط قرمز اون ای که دور موتور اونقدر زیاد شده که اگر کمی بیشتر گاز بدید، موتور از هم خواهد پاشید. مایک حرف اون را قطع کرد و گفت: یعنی اینکه هر یک دلار درآمد صرف هزینه ای می میشه؟ پدر پولدار گفت دقیقا همینطوره. پس اونها ظرفیت باختن ندارن چون که اونا قبلا باختن. پدر پولدار کمی صبر کرد تا واکنش مراد چشممون بخونه و بعد گفت این موضوع خیلی غم میلیونها میلیون ها نفر در سراسر آمریکا یعنی ثروتمندترین کشور دنیا در خط قرمز مالی زندگی میکنن. منم گفتم ایننا همون کسایی هستن که میگن سرمایهگذاری مخاطر آمیزه یا اینکه اگر پولم ما از دست بدم چه اتفاقی میافته؟ مردم اغلب این چیزها رو میگن یا دو دستی به پولشون میچسبن چون میدونن که قبلا در نبرد مالی شکست خوردن. پدر پولدار سری تکون داد و گفت: «آخه میدونید یه آدم ریسک وزیر اینو میدونه که برد و باخت دست در دست یکدیگر دارن این افراد هیچ وقت خودشونو فریب نمیدن که میتونن همیشه برنده باشن اونا میدونن که ممکنه بازنده هم باشن اونا میدونن که برای برنده شدن اغلب باید بازنده باشن من که داشتم بیشتر متوجه موضوع می شدم اضافه کردم پس به همین علت که اگر بخوای پولدار بشی باید هم متصدی بانک باشی و هم ریسک پذیری داشته باشی این نظر که یک کاراگاه خوب لازم یک کلاهبردار خوب هم باشه تازه داشت معنا پیدا میکرد مایک گفت و به همین دلیله که کسایی که توی مدرسه نمره های خوب گرفتن لزوما در دنیای واقعی پیشرفت نمیکنن دنیای واقعی از پاسخهای درست تشکیل نشده. دنیای واقعی از حدسهای متعدد که بعضی از اونا درست عذاب در میان و بسیاری از اونا اشتباه هستند تشکیل شده. پدر پولدار بازم سری تکون داد و اضافه کرد به همین دلیله که خیلی از پولدارترین افراد در جهان اغلب کسایی بودند که بیشترین اشتباهات و مرتکب شدند. جی پولگتی برای این معروف شد که برای پیدا کردن نفت تعداد بسیار زیادی چاه حف کرد که هیچ کدوم به نفت نرسیدند. اون برای حفره بی نفت معروف شد ولی دست آخر چاهی حفر کرد که به بزرگترین میدان نفتی جهان برخورد و این باعث پولدار شدن اون شد همین موضوع در مورد توماس ادیسون صدق می‌کنه زیرا میگن که اون قبل از اختراع لامپ الکتریکی ده هزار مرتبه با شکست روبرو شده بود برای همین میگم اکثر مردم بازندن چون اونا مشغول زندگی خودشون هستند و ظرفیت حتی یک شکست رو هم ندارند برای موفق بودن باید هم یک متصدی بانک بود و هم ریسکپذیری بالایی داشت تا انسان ظرفیت باختن پیدا کنه چون افراد ریسکپذیر میدونن که باختن جزی از بردنه امروز خیلی‌ها میخوان از پول خودشون در سرمایه گذاری های ایمن و بدون مخاطره استفاده کنن ولی متاسفانه خیلی از این افراد در نهایت توی زندگیشون بازنده مالی بزرگی خواهند بود اگرچه ممکنه هیچ وقت باختی نداشته باشند ولی ممکنه هیچ وقت به معنای واقعی برنده نباشند. اینا کسایی هستند که میخوان با خصیص بودن، ایمن بودن، زندگی در سطحی پایین از توان مالی و با از بین بردن کارت‌های اعتباری خودشون پولدار دار بشن. ولی همونطور که پدر پولدار گفت، تو میتونی با خساست پولدار بشی، ولی مشکل اینجاست که همچنان خصیص باقی میمونی. چقدر ظرفیت باختن دارید؟ حداقل 60 درصد از مردم آمریکا ظرفیت از دست دادن بیش از چند دلار را ندارند این به اون علتی که اونا قبلا در بازی زندگی به لحاظ مالی بازنده شدن. خیلی ها تا موقعی از دست دادن شغل خودشون یا توقف کار به علت کهولت سن یا ناتوانی جسمی متوجه نمیشن که تا چه میزان بازنده شدن. باید امیدوار بود که اونا خانواده داشته باشند که توانایی و تمایل به مراقبت از اونها رو داشته باشند. این افراد بر روی خط قرمز زندگی می کنن. و عمیقا به زیر بدهی های بد فرو رفتند اونا چنان نگران ادامه زندگی خود هستند که حتی نمیتونن پولدار شدن و توی ذهن خودشون تصور کنن برای حل این مشکل شش راهنمای ساده در فصل پنجم شما واقعا چقدر بدهی دارید ارائه شده است برای این افراد که بر روی خط قرمز زندگی میکنن پولدار شدن بستگی به بخت و اقبال داره تو یکی از سخنرانی هام شخصی این سوالو از من پرسید بخت و اقبال چقدر توی پول دار شدن شما نقش داشته؟ منم اینجوری جواب دادم که بخت و اقبال از نظر من چیزی به غیر از کار کردن با دانش صحیح نیست. اخیرا من و کیم 120 هزار دلار در یک سرمایه گذاری بد و بر پایی حدس و گمان ضرر کردیم. یکی از دوستانم خیلی ناراحت شده بود. توری نگار این پول او بود. او به ما گفت شما هر دو بد هستید. من و کیم چیزی زیادی در پاسخ بهش نگفتیم. چون صحبت کردن با کسی که در ترس از ضرر کردن زندگی میکنه دلیل منطقی نداره ما بهش نگفتیم که حدود یک میلیون دلار سود بردیم و فقط 120 هزار دلار در سبد اوراق بهادارمان ضرر کردیم ما همچنین بهش نگفتیم که ما واقعا به دو دلیل احساس خوش می میکنیم دلیل اول این که ما نسبت به یک میلیون دلار سود چیزهای بسیار زیادتری از 120 هزار دلار ضرر آموختیم به عبارت دیگه ما از اشتباهات خودمون دانش بیشتری به دست آوردیم. دلیل دوم اینکه ما ظرفیت از دست دادن اون مقدار پول بدون داشتن احساس بد درباره اون رو داشتیم. در حالی که چند سال پیش وضعیت بسیار متفاوت بود فصل چهارم. بهای از بین بردن کارت های اعتباری چیست؟ باید فرق بین بدهی بد و بدهی خوب را بدانید پدر پولدار از بین بردن کارت های اعتباری چه اشکالی دارد؟ به نظر من از بین بردن کارت های اعتباری مثل اینه که کسی بخواد وزن کم کنه و رژیم غذایی فشرده بگیره وفادارانه برای یک ماه تمام رژیم میگیره در هر وعده غذایی فقط ستا هویج با ماست کمچرد به عنوان دسر میل میکنه و بعد از سی روز، دیگه توان تحمل این عذاب رو نخواهد داشت یه روز توی مرکز خرید، کارگر شرکت کلوچه پزی یه نمونه کوچیک تعرف میکنه. کنه عطر کلوچه های تازه عقلهوش رو می پس اون به خودش میگه، ای بابا برو جلو، تو خیلی خوب بودی، فقط یه تیکه کوچیک از اون کلوچه رو بخور، طوری نمیشه. ناگهان متوجه میشه یه پاکت از اون کلوچه رو خریده و به منزل برده ولی پاکت کلوچه هیچ وقت به منزل نمیرسه. روی در خوردن ادامه پیدا میکنه. توری نمیکشه که شخص از وقتی که رژیم غذایی رو شروع کرده بود ده پوند هم سنگین تر میشه. عمل رژیم غذایی فشرده به واکنش افراد در خورد و خوراک ختم میشه. کسایی که منو میشناسن میدونن که من پاسخی برای لاغر کردن با رژیم غذایی و بعد وزن اضافه کردن های مکرر ندارم. من اگر رژیمی میشناختم که میتونست کاهش وزن دائمی رو تضمین کنه، الان از بیل گیت هم پولدارتر بودم. متاسفانه من خوب میدونم رژیم گرفتن و بعد برگشتن به عادت پرخوری چه حسی داره. از بین اعضای خانوادم من تنها کسی هستم که مشکل اضافه وزن دارم. من از زمان بچگی با این مشکل مواجه بودم. پس نمیتونم مشکل رو به گردن ژنتیک بندازم. اگرچه من راهکاری برای کاهش وزن فوری ندارم. ولی برای ولخرجی کردن و بدهی بالاوردن با کارتای اعتباری یک راهکار دارم و این راهکار از بین بردن کارتای اعتباری نیست راهکاری که من ارائه می کنم هزینهی داره این بارم سؤال اینه آیا مایل هستید هزینه اونو بپردازید؟ دیو و دلبر یکی از دوستان و همسرش هر دو اندامی زیبا دارم اونا باریک اندام پیراسته و تندرست هستند گرفتن برای اونا کاری نداره. انجام تمرینات ورزشی هم مشکل ایجاد نمیکنه ولی مدیریت پول اونا قصه دیگه ای داره. اونا هر دوتا تقریبا پنجاه سال دارند و خیلی هم پول در میارن. ولی اونقدر ولخرچ هستند که این موضوع اکثر آشناهای اونها اونا رو ترسونده. اونا صورت های کارت اعتباری قدمی خودشونو با کارت اعتباری جدیدشون تصویر میکن وقتی که حداکثر میزان وام‌های مسکن رو دریافت میکنن اقدام به خرید خونهای بزرگتر می اونا یه خدمتکار تمام وقت و یک پرستار برای بچهای خودشون دارن. تعداد ها، اسباب بازی ها،, لباس ها، مسافرت مسافرت‌های پرخرج اونا بیشتر از افرادی با ده برابر درآمد اونهاست. اونا سخت کار می‌کنن تا پول زیادی در بیارن. ولی هیچ وقت در مورد مشکل واقعیشون یعنی نبود خیشتنداری مالی، اقدامی نمی‌کنن. ما سالیان یکی دوستان صمیمی هستیم و وقتی به هم می‌رسیم، اونا از بی‌انضباطی من در مورد غذا خوردن و ورزش حرف می‌زنن. و من درباره باره مالی به اونا هشدار میدم. همونطور که قبلا گفتم، ما همگی چالش مختلفی در زندگی داریم. چالش من غذاست و چالش اونا پوله. افراد پول بیشتر از افراد بی پول بدهی دارند. من پول خرج کردن رو خیلی دوست دارم. ولی من و کیم پول خودمون رو با بی خرج نمی کنیم. دوست دارم چیزای بهتری تو زندگی داشته باشم. دوست دارم که موقع مسافرت با هواپیما برای نشستن در قسمت درجه یک و معمولی حق انتخاب داشته باشم. دوست دارم وقتی افراد به من خدمت عالی ارائه می کنن به اونا انعام خوبی بدم. دوست دارم وقتی مبلغی اضافی نصیب شرکت میشه پاداش بدم. دوست دارم وقتی سرمایهگذاریهامون هامون سودآوری داره دوست دارم رو پول دار کنم. من آزادی که پول برمقا میاره رو دوست دارم. دوست دارم هر وقت که دلم بخواد کار کنم و اگر دلم نخواد کار نکنم. پس از نظر من پول داشتن خوشاینده. پول حق انتخاب بیشتری به من میده و از همه مهمتر به من و کیم رهایی از مشقت امرار معاش میده. به همین خاطر منظور کسایی که میگن پول خوشبختی نمیاره رو نمیفهمم. من اغلب فکر میکنم که اونا برای تفریح و سرگرمی خود چیکار میکنن. وقتی کسی میگه کارتای اعتباریتون رو از بین ببرید، من که فکر نمیکنم این کار برای مردم شادی در پی داشته باشه. یکی از دلایل اصلی که مردم پول خرج میکنن اینه که این کار اونا را خوشحال میکنه الان افرادی پیدا میشن که در نیاز به شادی مالی افراط میکنن همونطور که افرادی هم وجود دارن که در رژیم گرفتن و تمرینات ورزشی افراط میکنن ولی به عقیده ای من علت اصلی این که از بین بردن کارت های اعتباری در بلند مدت فایده ای نداره اینه که کاهش استفاده از چیزهایی که از اون لذت میبریم باعث عدم احساس شادی در مردم میشه اگر مردم حق انتخاب داشته باشن ترجیح میدن پول و رهایی بیشتری داشته باشند تا از زندگی لذت بیشتری ببرند. تنها افرادی میگن پول خوشبختی نمیاره که پول دارن ولی هنوز احساس شادی نمیکنن یا اینکه معنی شادی و خوشبختی رو واقعا نمیدونن به نظر من وقتی مردم قادر به پرداخت صورت حسابهای خود نباشند یا اونقدر پول نداشته باشند که بتونن کار مورد علاقه خودشون رو انجام بدن اون وقت ناشاد و غمگین میشن در اواخر دهه 1970 شرکت من به سرعت تونس از تولید کیف پول مردونه از جنس نایلون و چسب کور میلیون ها دلار سود به دست بیاره. من که هنوز سی سالم نداشتم، پول و موفقیت تمام ذهن منو پر کرده بود و من به خودم مغرور شده بودم. هر بار که به ترازنامه شرکت نگاه می کردم، غرور و تکبر و فرا می گرفت. با خودم فکر می کردم که با هر یک دلاری که به ثروتم اضافه میشه، ذریبه هوشیمم افسایش پیدا میکنه. متاسفانه این قضیه برای من نتیجه معکوس داشت. در واقع با افزایش دلارهام، ذریب هوشی مالی من کاهش پیدا کرد. طولی نکشید، به اتومبیل‌های تندرو من شدم. از اون تجربه خیلی لذت بردم و افسوس اون دورانو توی زندگیم نمی‌خورم. ولی اون جریان نمیتونست ادامه داشته باشه. رنج و عذاب سقوط از میلیونر کاغذی بودن به کسی که حدوداً یک میلیون دلار بدهی واقعی داره، برای من تجربه‌ای بود که منو از خواب قفلت بیدار کرد. به همین خاطر من نگران همه کسایی هستم که امروز فکر میکنند چون سبد اوراق بهادار اونا پر از های کاغذی پس پولدار هستند. های مالی اوراق بهادار و های حقیقی به عبارت دیگه ثروت کاغذی و ثروت واقعی بسیار متفاوت هستند. بعد از اینکه برای اولین بار یک میلیون دلار از دست دادم، سری به پدر پولدار زدم تا منو راهنمایی کنه. اون بعد از اینکه صورت مالیمو بررسی کرد، سری تکون داد و دست آخر گفت: این یعنی اینکه کشتی مالی تو به گل نشسته. بعد بازم منو سرزنش کرد. همونطور که قبلا درباره ارزش اشتباهات گفتم، اون کشتی به گل نشسته و سرزنش و توبیخ بعد از اون از بهترین درساییه که در زندگی گرفتم. ارزش اون اشتباه برای من خیلی گرانبها بود و هنوزم تا به امروز به من کمک کرده. اگرچه اون شکست حدود یک میلیون دلار برام تموم شد، ولی در درازمدت بیش از میلیونها دلار برای من به ارمغان آورده. و در آینده هم پول بیشتری رو به سوی من جاری خواهد کرد. اشتباه کردن و درس گرفتن از اون میتونه تجربه بسیار پر ارزش باشه. ولی اشتباه کردن و بعد دروغ گفتن، تقصیر رو به گردن دیگری انداختن، انکار کردن و یا وانمود کنید که اشتباهی نکردید، به هدر دادن یک اشتباه خوبه. امروزم وقتی خودم رو در حین ارتکاب یک اشتباه جدید میبینم، به خودم میگم خونسردی تو حفظ کن، عصبی نشو، حواستو جمع کن و از این تجربه درس بگیر. این تجربه بظاهر بعد اگر تمایل به یادگیری از اونو داشته باشی میتونه بعدن در خدمت تو قرار بگیره خوب توجه کن و اکنون که هنوز درگیر این اشتباه هستی تا اونجا که میتونی ازش چیز یاد بگیر تبدیل شدن به یک میلیونر کاغذی در آستانه سی سالگی و بازنده شدن و یک میلیون دلار بدهی واقعی بالا آوردن برای من بود کاش میتونستم بگم که حواسم جمع کردم و وقتی که اون ثروت پوشالی در حال نابود شدن بود از اون